و ال ایته تی بینت تاریم و, و لنت الله ال اهدایم مضمین من آن الاققیام یا مدی با ارز سلام خدمبت سروران محرم برای اینکه روشن بشه ما دنبال ثبات چه ادعای هستیم، طبق قراری که شد ما اجوالا روشن مخواهیم بکنیم در قدم اول که اون چیزی که در صدر اصفاتش هستیم این هست و به انظار دیگران شیعن تمدزوی نداریم و بعد براش برای شپورهانهایی که مورد نظره ارائه خواهیم کرد و مورد بحث باقی میشه در توضیح ادعا یک تاریخچه ای از بحث وحدت و کسرت وجود و انظاری که در اینجا هست ارائه خواهم کن در کسرت و وحدت وجود یک دیدگاه دیدگاه معروف مشاینه که قائلم که حقایق وجودیه حقایق متباینه است به تواینه کامل یعنی هر وجودی برای خودش یک حقیقت و یک ذات نسید به خودش داره به طوری که اگر خواستی او رو تعریف کنی اون تعریف فقط همون یه مورد را میگیره در جای دیگه این تعریف حدی و حقیقی وجود الف به کار نمیره چون وجود به به تمام ذاته با وجود علف متباینه نهایت یک عنوان عرضی بیرونی انتظائی بر همه اینا ها صدق کنه چون او حقیقت کاری به هویت و حقیقت اینا ها نداری این به ازای هر وجودی در جهان هستی ما یک حقیقت خاصی داریم وجود علف، وجود ب، وجود جیم آخر هر کدوم تکثر دارند از هم دیگه تمایز دارن از هم دیگه و بی‌ار تامیز شدن حقیقتشونه این یک دیدگاه که به مشایی نسبت داده میشه حالا البته در اینکه این که ای نسبت درست نه درست بحث گفتگوهای هست و ولی حداقل به یک احتمال قابل طرح وجود دارد. خب این یک دیدگاه مربوط به مشای از دیدگاه مشایان چه بیای کنار بقیه به نوع همه به وحدت حقایق وجودی اعتراف داره یعنی وجودات اینجا اونجا میگن دارای یک حقیقته و اگر بنا تعریف ارائه بشید تعریف حدی همه رو باید با یک تعریف تعریف کنی خلاف اون دیدگاه قبلی خب این ها وقت احسامی دارن خود این ها همه یکسان نظر ندارن تا این جامعه با هم مشترک هم. ولی این احسامی داره به انزاری داره یه دیگه میگن که در اینه اینکه وجود حقیقت واحدیه این حقیقت واحد مسادیق متعددی داره مستاقهای متعددی داره یه مستاقش مثلا خدا یه مستاقش انسان یه مستاقش عصد و برو تا آخر این دیدگاه دیگری که اینجا هست بعد خود این دیدگاه به صورت‌های مختلفی ممکنه که تقسیم بشه آیا اون حقیقت وجود که شما یک معنای واحد می‌گیری، یک معنای واحد، واحد تشکیتیه یا نه، واحد متواتیه اینجوریه چون که دیدگاه‌هاش بشه مختلف باشه اگر تشکیتیه تشکیکه در حد مفهوم به خارج فرایت نمیکنه یا نه تشکف در مبن واقع خب به حکمه های و حکم های ایران باستان این نسبت داده شده. حالا در روسته آن دو درست خیلییم هم تویش بحث بکنیم. چه میگم اونها حقیقت وجود ما یک حقیقت می جنیم. ولی در حد تشکیک مفهومی برای این حقیقت واحد ما تشکیج قائل هستیم خود مفهوم را مشکک میگیرم تشکیک رو به متن واقع بیرونی سرایت نمیدم میگن بله شما مفهوم زید را وجود زید را با وجود امر را و وجود خدا را وقتی او تو ذهن تو حمل مفهوم وجود بر وجوداتی که تو ذهن چونهادش تصوری داری این حملش الاسبیه یعنی به صورت تشکیجیه خب یاد ده این تونه که میگم در فلسفه صدرایی تشکیج پذیرفته میشه ولی این تشکیج میره تو متن خارج یعنی اون حقیقت یک گانه در متن واقع افرادی دارد مسادیقی دارد ولی این مسادیق همه رتبه های متفاوت یک وجود واحده یعنی همطور که یک حقیقت تو خارج بادنیم در خارج یک واقعیت هم بیشتر نداریم منتظر این یک واقعیت یه اوجی داره که وجود حق یه حزیزی داره که مثلا هیولا یا وجود رابط حالا یه چیزی و یه مناطبی هم بین این دو اوج حزیز وجود داره که به الواقع یک تشکیج عیمی ایشون تحکر پس من آرین رو دیدگاه فلسفه صدرایی وجود یک حقیقت یک یک گونه است گونه گیش حقیقتش یکی بیشتر نیست به صورت که تعریف که خواستی بکنی سر تا پای هستی را یک تعریف براش باید کرد. و این یک حقیقت یک گونه یک واقعیت یگانه هم داره یک واقعیت تو کل هستی اما این یک واقعی تیگانه گانه و عزیز و شیدید و ضعیف و مراتب متوسط داره تو متن واقع که عوض وجود هست بقیه یه مراتب هم که مراتب به حقائق امکان این هم تقریبا دوتا دیدگاه یکی دیدگاهی که مراتب به حکمای ایران باستانه که تشکیکه تو متن خارجیم برنه ولی در دیدگاه صدرایی تشکیل متن واقع هست و تو متن واقع در عین اینکه وجود متعدده است یک واقعیت هست و کسرت به وحدت باید برگرده دو حقیقت تشکیل این هم دو تا دیدگاه که با اون دیدگاه قبلی ما هم رفته سه دیدگاه و اما دیدگاه دیگر اینجا هست که به عرفا مروطه او رفاه میگن که آقا حقیقت وجود نه به حسب ذاتش ماهیتش حقیقتش یا هر تحبیر دیگری که بخوایی بگوی تکسر و تعدد داره سنانس که مشایی هایی ها میگفتن مشایی میگفتن هر وجودی برای خودش یه حقیقت خاص خودش داره به صورتی که میخواستی تعریف کنی برای اون تعریف فقط یه مثلاق در نداشتیم همونیست که مثلا بشه چهارم در دیدگاه عرفانی این مسئله منتفیه وجود یک حقیقت بیشتر نیست به حسب اصل حقیقتش یک حقیقت یک سنخه و اگر هم برفرد تصراتی باشید همه تصرات او باز باید با یک تعریف تعریف بشه خب این پس مانوانین تا اینجا عارف میگه حقیقت وجود حضور به حسب ماهیت چیستی حقیقت یا هر تعبیر دیگری به خیلی اما به حسب واقعیتش چی بر فلاف دیدگاه قبلی که همه اونها واقعیت های هستی را هم متعدد میدونستن این میگن یک واقعیت پیشتر نیست برای حقیقت هستی این یک واقعیت را تو فلسفه صدرائی هم یگانگیش پذیرفته بودن منتاش فرقش اینجا با اونجا چیه؟ در فلسفه صدرائی میگه این یک واقعیت یگانه و چگونه مراتب آدیادانی متوسط داره اما در دیدگاه ناب عرفانی همین تکسر تشکیتی هم از متن هستی مرتفعه یعنی حقیقت هستی یکی به حسب سنف ذاتش بیشتر نیست یک واقعیت هم بیشتر ما نداریم برای این حقیقت یعنی این ذات مسادیق متعدد نداره پس یک حقیقت یک گونه و واقعیت یک گونه است بدون اینکه اختلاف مرتبه‌ای برای او باشه یا اوج برای او باشه عالی دانی برای او باشه اینها تو خود متن هستی راه نداره و اما بقیه چیزایی که ما عنوان برای براش در نظر گرفتیم به حسب اطلاعات عرفی و اونها رو موجود میدانیم. اینا فقط در حد اینکه موجود نما باشند برای ما بوی وجود پیدا بکنه یعنی موجود بلا عرزند موجودیت رو اگر به اونها نسبت دادیم اسناد اسناد موجودیت به ما اون حقیقت هستی اسناد بالعرزه و که به دقت فلسفی مالی همسی موضوعی نیست ولی ما به حساب به اصطلاح باب مجازات که یک انگیزه های اوقلایی در چنارش هست این مزازات را به لحاظ اون انگیزه های خلاص مورد نیاز در جامعه انسانی برای ما سوای ذات ذات هستی به کار میبریم ولی موجود حقیقی نیستن در حد اینکه موجود نما باشن چهره موجودیت وجود را نشون میدن اما خودشون موجود حقیقی نیستن نزیره مثال به سال غرفی بزنی؟ مثل اینه که زنابالی وای آیسی زلوی آینه خب هرچی نگاه بکنه ازش یکی سال بکنه آقا این چیه که تو آینه میبینی میگه مثلا آقای زیده ولی که زید نیست آقا همچه این صورتی از زیده اون را نشون میده حالا خود اون که نیست خود اون اینه که زلویش آیسده تو محیط خارج از آینه آیسده در همین حد برای ما سوای ذات وجود اینها شیعیت به این صورت قائلا اون چیزی که عرفا میگن اینه و ما هم اون چیزی که میخام اثبات بکنیم با ادله ای که در نظر داریم همین دیدگاه اخیره که آقا حقیقت هستی همون حقیقت لا بشرط لا بشرطی مکسمی نه اینکه حتی لا به شرطیت برای اوچی باشه قید باشه حقیقت لاب هستی این هیچ تکسری نداره نه تکسره به حساب سنخ ذات که مشایم قایلن نه تکسره به حساب مصداق که تو فلسفه های دیگر به نوعی همشون متقدن که اون حقیقت هستی میگن حتی که یک حقیقته ولی مسادق متعدد داره نه تکسره به حسب اختلاف رتبه که بگوی درست یک حقیقته یک واقعیته اما رتبه بالا و پایین و متوسط تو این حقیقت واحد هست ولی این دیدگاه تشکیچیه تو متن واقع مثال بخنی براش بزنیم مثل چی میمونه مثل این میمونه چشما یک شاه نوری را از مثلا یه روزنه ای در نظر بگیری که از خورشید تا زمین رسه. وقتی از شما سوال میکنن این چیه؟ خب یک حقیقته اما حقیقت نوره چند تا شاه نوری میگرد یه شاه نوری از یک روزنه خیلی ریز مثلا از اونزتا اینجا رسیده اما این یک شاه نوری واحد اون مراحلی که نزدیک به منبع نوریه خیلی قویتر است این که این جالبه مادر در ای زمین میرسه قوت و ضعف داره مراتب اشد و ازعف و متوسطات داره دیدگاه صدرایی تورکی میگه اما عارف میگه که نه شما در حقیقت یک وجود بیشتر نداری این یک وجود یک مستاق همیشتر نداره و این یک مستاق هم اختلاف چی همچی یا عالی یا دانی متوسطاتی داشته باشه چی نداره پس تا اینجای ای بحث روشن شد چه عارف چی میخواد بگه یه نکته دیگری که اینجا در واقع باید مطرح کنیم که حالا تو بحثایی بعد در اثبات مورد توجه واقع میشه برای خب اینجا باید روشن بشه چی مراد چیه اینه که حالا مسداق این حقیقت وجود چیه هم تو این بحث دخلیت نداره. نظیر اون ورانی که مرحوم علامه تها توایی برای اثبات وجود حق میارن که تکیه میکنن بر چی؟ الواقعیه. یعنی واقعیت صرف نظر از اینکه مطابقه به ذاتش چی باشه. وجود باشه اونطور که تو فلسفه صدرایی میگن. یا چی ماهیت باشه اتناد که در بعض از هایی دیگه گفته شده اون برای ما باز در اینجا مهم نید اگر میگم هستی این که حالا هستی واقعا چیه و در واقع مطابق بذاتش برای ما چی باشه توی این بحث بحثی که خواهیم کرد مدخلیتی نده ما در واقع هستی را تو این بیانمون و در ادعاهامون همون میدونیم که نقیز عدم است. همون که چی؟ نقیز عدم است. حالا اینی که نقیز عدم است مطابق به ذاتش وجود باشه، وجودی که در مقابل ماهیتیه که در فلسفه صدرایی اصالت رو به او میده. یا نه یه واقعیتی دیگه، یه چیز دیگری یه مطابق به دیگری نظیر ماهیات داشته باشه او البته تو این دو تا دیدگاه ما اون دیدگاه صدرایه تجربه کنیم ولی بخنم این بحث ما از نظر دعوی و عدلهی که بعد خواهیم آورد مبتلی بر این نیست حداقل تو بحث از برش از برهان‌ها ها به این که حالا اون مطابق ذاتش در بر اساس بحث های اصالت وجود یا مقابله اصالت ماهیت شی باشه اون مطابقه به ذاتش در ادعای ما فعلا فرق میکنه تو ادله ای که خواهیم آورد حداقل بسیاری از اونها دخالتی نداره بگه حالا موارد خواستی که حالا اون رو بعدا بحث کنیم پس بنابراین ادعا تا اینجا روشن شد که ما چی میخوایم اثبات کنیم ما همین دیدگاه رو میخوام اثبات کنیم یعنی میخام کنیم حتی اگر آرف هم به این نظر معتقد نباشه این نظر نظر قابل قبولیه و برهان داره یعنی ما خواهم اینا تذکر بدم که ما حالا اینجا بحث اصلیمون هم با جناب آقای صبحانی نیست یا حالا آرف اینا گفته یا نگفته با حالا میگم میگویم اینا گفته و به همین ویان چرز کردیم گویم و اینا نظر دارم حالا این کسی حتی بگرد که نه آقایی آرف اینا چرز نزده ما باشید. با این در این زبا شما نزایی نداریم چه عارف اینا گفته نگفته ولی بخواهم بکنیم یه داران میتونیم قرآن اثبات کنیم چه عارف گفته باشد چه نگفته باشد این دعوای ماست حالا حالا انشالله تا من بر بعد برد دبینیم چی میشه عزاکم الله خیلی خب عزاقی این شغل فهمیدن که محل بحثشون رو و تبرین رو تحریر کردن حضور صبحانه بفرمید اگر انتقادی هستش نسبت بهش الله و شیطان جدیه اسمه است و و و و الله عرضه تشکر داریم از حضور محترم که روت فرمودند و در جلسه حضور به هم بسندند از معظمی که در جلسه حضور دارند و همینطور عرضه تشکر بیجه داریم از جمعه استاد و که پذیرفتند و در این نشست حضور به هم بسندند انشاءالله با ادامه این جلسه و این جلسات و پر شدن بحث های دقیق علمی در سطح حوض فضاهای جدیدی فراروی محققان جوان ما گشوده بشه و انشاءالله طلاق و ورزیده در این میدانهای مباحث عقلی بیشتر و امیختر حضور پیدا تا <تصفح> به من شورای عضو خاموشن 2000 در اسلام گرفته و تنعزیات اون کله وصول همطور که اشاره فرمودن بحث رابطه بین نظریه عرفانی و فلسفی یک خط و مرز روشن و واضحی داشته و بحث این جلسه ما بحث در همین تمایزات است. که در دیدگاه عرفانی وجود داره تقدیری که فرمودند از نظریه آرفان و میخوایم بحث کنیم که آیا آرفان بر این مدعای خودشون بر تمایز دیدگاه خودشون است دیدگاه فلاسفه یا دیدگاه متکلمان برهانی دارند یا ندارند طور که اشاره کردن اگر بخوام یک خیلی خلاصه تفاوت بگذاریم بین دیگاه اتفالی و دیگاه خرصفی باید این گونه بگیم که غیر آرفان جهان بیرون تو هر چی که در واقعیت وجود دارد و متکسر می به حقیقت تکسر یعنی معتقد ما در آدم خارج با وجودات و موجودات مختلف سر و کار داریم حالا این کستت، وجودی است، وجودیست، ماهوی است. به تعاویر مختلف اون مهم نیست. یک طرف این جفه متکلمان، فیلسوفان در تاریخ هستند. آرفان به خصوص از زمان ابن عربی که حالا تبیین نظرگی افعالی رو کرده، ادعا دارند که نه جهان بیرون، همه جهان بیرون یک واقعیت هست اولند. اونم نه یک وا... واحد سنخی یا یک گونه از وجود نه یک واحد شخصی است یک تک وجود است در کل نظام هستی هرچه بیرون است واقعیت بیرون سراسر یک واحد شخصی است این واحد شخصی بسیط است واجب است انحصارا همو وجود دارد و حقیقت دارد و البته کسرات هم وجود دارند اما کسرات در نفس واقعیت و در نفس وجود دخالتی نمی کنند با این تفاوت آرفت دو بار رو بر می گیرند که اثبات کنند بار نخست این از که ثابت کنند که اون چیزی که در عالم خارج وجود دارد یک وجود است. که <تصفيق> همون وجود لا به شرط مقسمیست وقتی ما وجود رو تقسیل میکنیم به اقسامی تقسیل میکنیم یا گیدش میزدیم به اشیا یا لا به شرط از این اشیا میبینیم و یا اینکه حتی گید به اطلاق میزدیم بیگیم وجود مطلق آرفان هیچ کدام از قبول ند نقال وجود مقیدن نه قائل به وجوده به شرط لا و نه قائل به وجود مطلقاً به معنایی که وجود مقید است به اطلاق این قبول ند بلکه معتقدم در عالم خارج ما یک وجود داریم و اون وجود لا به شرط مقسمی است آبی از هر گونه تعیون و تخصص خوب آرفان این رو باید ثابت کنن که آن تو بحث‌های بعدی می‌رسیم و ادله رو بررسی می‌کنیم الان کار ناتون. دومین نکته‌ای که باید ثابت کنن این است که کثرات در خارج وجود داره. ببینید در اینجا گای اوقات می‌گیم عرفان تصوف منظور از عرفان به قول آیون جهله صوفی هستن. جهله صوفی گای اوقات گفتن وحدت مطلق. گای اوقات گفتن کسلت مطلق. یا گفتن در خارج وحدت وجود دارد هیچ کسرتی کثرتی نیست گوی اوقات گفتن کل کثرات عالم روهم رفته میشه اون واحد شخصی اینا که محل کلام نیست محل کلام نظریه عرفای شامخین هست که جناب استاد هم از این نظریه در اثرشون رو در اینجا دفاع میکنن عرفای شامخید معتقدند که درست است که واقعیت خارج فقط مطابق مفهوم وجود است به معنای وجود لا به مقسمی اما در عین حال کسرات هم حقیقتی دارند حزی از حقیقت دارند معثرند تمایز دارند تأثیر و تأثری در بین اونها قابل ملاحظه هست اما هیچ کدام از این کسرات هیچ کدام از این تأثیر و تأثریات غیر از همون وجود لاب شرط نیست این مدعای است یعنی آرف دو ادعا می کند که فیلسوف قبول نداره فیلسوفان وجود لاب شرط رو را قبول ندارد میگن وجود لاب شرط مقسمی مفهومه یعنی چیزی است که مقید به هیچ چیزی نیست وجودی که هیچ قید و تعیونی ندارد کجا وجود داره؟ این فقط تو زهن اما عارف میگه اتفاقا همین همه حقیقت خارجی است. و نفتری دومی که فیلسوفان در طور تاریخ نپذیرفتند این است که ما بپذیریم کسرت و تأثیرات اون به مثل تمایز و تأثیر و تأثیر در این حالی کسرت رو انکار کنیم دیگه کسرت تو کیان وجود اصلا نیست میگه اگر چیزی هست کسراتی هست تمایزی هست این تمایز تو ناهیه عدم که نیست با تو ناهیه. وجود باشد این ادعا که ما چیزی داریم که صاحب تأثیرات است، اما در این حال در ناهیه وجود نیست این رو فیلسوفان قبول نداریم من در این نوبت اول میخوام دو تا اشکال به این بحث بشته باشنم اشکال اول هم اشکال روشیست یعنی در واقع میخوام یه جوری نقد کنن این خرایندی که ما در تاریخ در بحث وحدت شخصی وجود داشتیم ببینیم آیا اساساً این روش به سرانجامی میرسد یا نمیرسد این رو خیلی اصدار ندارم بگر اصدادم نظرشون نبود ایشون پاسخ لنده اشکال دوم به این تقریر هست و میخوام بگم اساساً این تقریر هست اشکال و چی شد؟ عرض می کنم هنوز عرض بکنم اشکال هم اشکال روشی است که میخوام بگم آیا اساساً اثبات وحدت شخصیه وجود با این تعریف قول اورفای شامخین به سرانجام میرسه از طریق برهان یا نه؟ آیا ادعای آرفان رو باید در شهودات پیدا کرد؟ یا توان از خارج شهود آورد در تبینهای عقلی هم جایگاهی برش قائل شد دلیل آورد مهاجه کرد و چیز رو ثابت کرد؟ اشکال اولمه توضیح میدن اشکال دوم میخوام وارد بشم بگم اساساً که این تصویری از آدم واقع معقول نیست تا قرار باشم ما برش برهانی اقامه بکنیم یا برهانی اقامه نکنیم خود تصویر فی حد ذاته مستلزم تناقضیست که از این تناقض هم بیرون نمیاد اشکال اول چیه؟ ببینید تاریخ تفکر بشر 3000 هزار سال از 5000 هزار سال از نمیتونم. تا به امروز که فیلسوفان قلم میزنند یعنی اکرات متعالیه آمده شارهان و آمدن در زید او بحث کردند و حتی تلاش کردند در این مسیر در این دوره اخیر و حتی در دوره میانه خودشونو با آرفان نزدیک کنن زوق و تعلق درست کنند وحدت تشکیلی درست کنند وحدت تشکیلی یه جور برگردونن تمام فیلسوفان در تاریخ نتوانستند چیزی به نام وحدت وجود لاب شرق مقصدی اثبات هیچ کنه. یعنی تمام تاریخ معطل ابن عربی بوده است که ظهور کنه وحدت شخصی وجود مطرح مطزخ تازه خودش هم دلیل نیاره شارهان او تلاش کنن برای چنین مدعای شهودی دلیل اقامه کنن پشت سر هم دلیل اقامه کردند. یکی پس از دیگری شد و موفق نبوده ما حدود ده تا دلیل برای وحدت شخصی وجود در آوردیم همه اینا مشکل دارن استاد بزرگوار جای جوادی در درس‌های تمهید به تفصیل وارد این ادله شدن از همه کتب عرفان نظری ایشون فرمودن کل ادله عرفان نظری 7 تاست رو یکی یکی نقد کردند. فرمودن هر هفت تا باطله یا خرج مفهوم به بیساط که مفهوم رو واقع پیدا یا خاطر بین حملهوری و حمله شایع صناعی است یا یا مصادره مطلوب هیچ کنم فایده نداره ایشون فرمودن در تمام ادله که بر وحدت شخصی وجود اقامه شده است فقط ما یه دلیل داریم اونم اون دلیل رو ایشون استیاد میکنن یه کمی هم خیال ما راحت میکنن می‌فهموی اسباب تعلیم نیست تبیین تنبیه این خیلی هم دنبال برهان زارن توش نبواد بگردید. او از چیه؟ نظریه علامه تقریر علامه طباطبایی است در بحث برهان صدیقین. که معروف این لازم اومد مطرحش میکنه ویداسپی اصلا برهان در بیاد یا نه. من سوالم این است. حالا بعد از اینها به هر حال اساتید بزرگیات تلاش کردن جای عشابه زحمت کشیدن واسه اینا واقعا قدر دانست کسانی که عمر میگذارن تحلیل میکنن حرف گذشته گانو میخونن سعی میکنن رأی جدید بدن ما باید در حوزه استقبال کنیم از این آرا. حال جنب و جوش علمی ما مرهون همین رأی های تازه است ولی من سوالم اینه شما بعد از این مدت که اقلای عالم آمدن از فیلسوفان هیچ کدام وحده شخصی قائل نشدن ابن عربی آمده با شهود خودش اقلا رو بیدار کرده گفته ای آقلان. اشتباه دارید میکنیم اغنی ها آمدن بر سر سفره ابن عربی نشستن برها نقام کردن. بزرگان معاصر ما که در عرفان درجه اول هستن گفتن هیچ رازی برهان ها ثواب نیست. استاد بزرگوار ما آجای اشاقیان تند تا برهان اضافه کردند. این برهان ها را در پنجا و نف جلسه با آجای فیازی بحث کردن. تو اینجا نوشتن. آخر هم حاجی آجای فیازی رو راضی کنن. که ما چیزی به نام وحدت شخصی وجود رو میتونیم برهانی کنیم ها جای همه ما میشتسیم هم فلسفه میداند هم ارکان میداند هم دقت عقلی دارد هم اهل انصاف هست و هم در نوت درصد در مبانی مشترکه حالا من تو بحث ادله خواهم گفت من از همون اول نشان خواهم داد که اصلا مبانی که در اینجا وجود داره مشکل داره نا ایشون فضیرفتن من سوال این است نظریه یه وحدت شخصی وجود که بعد از این مدت نتوانست برهان پیدا کنه بعد از پنجه و جلسه ما نتوانستیم با جای فریازی نشون بدیم که واقعا بر وحدت شخصی میشه برهان آور این روش به کجا میانجانه یعنی قرار است ما با بحث برهان بر وحدت شخصی کجا رو بگیریم من واقعا مشکل دارم بایی بیاره چه در ابتدای این کتاب استاد بزرگ جای اوش فرمودن تمام اون چیزی که فلاسفه در طول تاریخ بفتن حتی مل و صدرا، حتی شعرهانش تا الان فرمودن بر پایه دو اعتقاد موهوم و همین تعبیر بنا شده اینکه فل... هستی حکمی می‌پذیرد، هستی کستت داره یعنی کستت وجود اگر همه اقلاع عالم این مقدار رو نفهمیدن که وجوده وحدت داره لا به شرط نقصمیه هیچ گونه کسرت درش راه نیست و شما تعبیر میکنید در مقدمه که همه اینا شبه فلسفه هست. و تنها فلسفه فلسفه ای است که بر اساس وحدت شخصی وجود بنا شده وحدت شخصی وجودم الهی و نه هازا حداقل اساتید ما و شما مال بس میکنیم تا اساتیدمون با این مشکلات در برهان وجود داره من به لحاظ روشی اشکال دارم نگم چه اصراری داریم اگر چیزی آرفان ادعا میکنن ما در محل شهود میابیم و به شهود خودشون تکیب میکنن و حتی کسی مانند ابن عربی هرگز در سرد استدلال بر نیامده و هرچی گفته بیان شهودات خودشه شارهان بعدی آمدن گفتن آن بیان حرف ابن عربی را هم یه جوری اغلانی کنیم وقتی یه حرف در طول تاریخ از سوی اغلای آلم همه اغلای و حکیمان و فیلسوفان برهان پیدا نکرده ما چرا وقت خودمون طرف کنیم دوباره یه برهانی بیاریم که به همه اشکالات دو چهار هست و این بس فیعته سرسن اگر آرفان ادعا میکنن که ما شهود داریم و در شهود اون وحدت رو یافتیم هنی الله راه خودشون نشون میدن دیگران هم بزنا توییت میکنن یا به اون شهود میرسن یا به اون شهود نمیرسند اما اینکه بخوام یه حرفی که وقتی با لباس عقل بهش میاریم توش حالا عرض میکنیم تناقض ابهام مغالطه است چه دایی برای این نکته دارین ابن از روشی اکثر ممکن فنی قسمت رو اجازه وشاوی نخل بپردازن من مهم نیست من از در خودم برای دوستان جوانم عرض میکنم معتقدم این مسیر کسی بحث تاریخی این بحث دنبال کنه و ادالر بررسی کنه باید مأیوس باشد از اینکه حرفی به نام وحدت شخصیه که تقریش شد رو بشه اثبات کرد و برش برهان آورد این چنین که بیایم همه فلسفه همه کلام شفه فلسفه است ما یه فلسفه داریم فلسفم تو اصل آبگیس برهان ندار دلیل ندارد دلیل که بس. اما به همه و نقد بر مدا ببینید شما در مدعایی که فرمودید هم توی که در این کتاب هم آمده و به خوبی هم اشاره فرمودید خیلی تفاوتی با همون نظریه ارفان مستلح نداره ولی قرف های شامخی سه تا مقدمه این استدلال داره یعنی این بیان داره ازمه که این تقریر مختبای وحدت شخصی وجود سه تا مقدمه داره مقدمه اول این است که وجود در مقابل عدم تجربه وجود در مقابل عدمه یعنی هر چه ما از وجود سخن میگیم مقابلش نیست است نیست حقیقی است یک دو وجود یک امر واحد است که درش هیچ گونه کسرتی راه ندارد هیچ گونه کسرت نه به تغییر دی نه به حیثیت نه, نه کسرت ماهوی نه کسرت وجودی. بی وجود لا بشر هیچ گونه کثرتی راه نداره وجود مقابل عدم هست این وجودم سراسر یک امر واحد بسیطی است که حتی مقید به اطلاق هم نمیشه حتی تقیید به اطلاق هم نمیخوره اینام دو سه در عالم خارج کثرت واقعیت داره واقعیت دارد یعنی تاثیر داره یعنی اینو اون داریم من و شما داریم تأثیر و تأثیر داریم طبیعت و ماده و عقل و نفس داریم این هم هست خب سوال ما اینه این سخن هم امتناع ارتفاع نقیزه شاملش بشه هم امتناع اجتماع نقیزه هستانی در این کتاب از ابتدا اولین بحثی که مطرح کردی بحث اثبات امتناع ارتفاع نقیزین و نظر همه یه هم با همین اثرت کردی حتی جالبه اینجا هم آمدید که برای امتناع ارتفاع نقیزین استدلال هم کردید فهم یا ها امتناع ارتفاع نقیزه ضروریه اما در این حال میشه بیان استدلالی هم براش داشت بسیار خوب میگیم امتناع ارتفاع نقیزین من میگم وحدت شخصی وجود بیش از وحدت تشکیکی وجود شما ادعا کردید مشمول امتناه ارتفاع نقیزه شما میفرمایید وجود در مقابل عدم است کسرت وجود نیست در اینها کسرت واقعیت داره من سوال میکنم این کسرت یا وجود است یا در ناحیه وجود افتاده یا در ناحیه عدم افتاده در ناحیه وجود که نیست چون فرض برای این است که وجود واحد لا به است هیچ کنه تأییم ندارد این کسرت در ناهیه عدم هم نمتونه باشه چون عدم نیست پس در حاق کسرت امترا ارتفاع نقیزین وجود داره تمام کسرات عالم نموجودند نمعدومند یعنی نه وجودند و نه ادبن پس چی چگونه ما یک کثرتی رو قائل میشویم که نه وجود دارد در ظرف وجود نیست هیچ گونه تعینی به وجود نمیزنه من توی عبارتام دقت دارم و ایستادم وجود کسرت در ناحیه وجود نیست به وجود هیچ گونه تعینی نمیزنه هیچ گونه تأیون. در عین حال حقیقت دارد و دارای تأثیره من میگم این هم اجتماع نقیزین هست هم ارتفاع نقیزین هست ارتفاع نقیزین هست چون کسرت نوجود است و نه ادم این نظریه اجتماع نقیزین است چون برای کسرت هم حز وجودی قائلیم هم حض غیروجودی قائلیم به لحاظ این که دارای تأثیر است. و تاثیر جز در ساخت وجود نیست، باید حتما وجود باشد. یعنی برای در ساخت وجود از اون جهت که ما برای وجود یک لاابشرط ریاضی درست کردیم که جای برای کسر نمیگذاره این باید استابه عدم باشد. هم جمع نقیزه این است، هم رفع نقیزه. دیگه اشکال من، اشکال دوم به این تقریر که 4 اشکال دارم چون میخوام بحثا امیدوارم سریتر بگرده که دوستان هم پیگیری کنن. اشکال دوم این است، واقعا بنابر این نظریه لا به شرط مفسه چگونه گونه خارجی پیدا نمیکنه لا به شرط مقصوی اون چیزی که ما میفهمیم یه تعریفی داره یعنی یک حقیقتی که هیچ گونه تعینی نداره فرض بر این است که این امری که هیچ گونه تعین ندارد، تمام کیان وجود رو پر کرده هیچ چیزی برای غیر جا نگذاشته خب وجود لا به شرط مقسمی خودش تعیان داره اگه تعیان داره که به شرط تعیان میشه به شرط اطلاع میشه و عارف میخواد از این فرار کنه میگه من وجود مطلق به شرط اطلاع قبول ندارم وجود لا به شرط رو قبول دارم اگر تعیان پیدا میکنه اگر پیدا نمیکنه این وجود لا به شرط غیر متعین آیا فرض تحققش اصلا میشه؟ می توان تصور کرد یک امری که هیچ گونه تعینی ندارد اما تحقق هم دارد. اینم بیان دوم ما به نظر اینم یه امر نامعقولی است اگه همه فیلسوفان حتی صدرالم حتی شارحان صدرالم نپذیرفتن نظریه وحدت شخصی وجود رو به دلی یکی از موارش همین است. مثلا فرض وحدت فرض وجود لا به شرط مقسمی بدون نمی نمیره خب صدرا میدانیم حد در هفت یا هشت جای اسفار به این بحث نزدیک شده تا آستانه بحث آمده در اونجا وقتی خاصه بحث تمام بکنه تعییم رو ثابت کرده وجود لا رو وجود به شرط را رو اثبات کرده برای واجب تالا و بحث تمام کرده هیچ وقت نتوانسته نشون بده که چیزی ما به نام وجوب وجود لاشрт مقصدی رو داریم حالا من دو تا اشکال هم خاطر دارم در ضمن ادل نظر فهمید خوبه شما لاشط خون بنده هر وسیله چه داره تو مرزه هم کاملا روشن کردم که نوباره چی هستم سلام آقای سبحانی یه مطالبی را مطرح می کنم که هیچ به توابیه بنده نداری شی. حالا چه حق باشه چه باتی اون کتاب اصلا موضوعش بحث رتک شخصی اون ارز بشه که قرار ساعت و گانه‌ای که بنده وای فای داشتم هرچی که مطالبه اثبات وحدت شخصی نبوده بلکه بحث سر برهانی دو تا برهان از برهان‌های وحدت شخصی بوده ایشون میگه خب شما نتونستی اونجا ثابت کنی یا ثابت نكنی حالا ای این چه؟ بر فرض که باشه بحث ما این اینجا اینه که آیا مون زمان تونسته این کاری بکنیم میناد کنیم چه ربطی اصلا بحث این زا ارز که بعد ایشون فعلا این که وحدت شخصی دلیلی نداره داره امر مسلم میگرم میگن از صدر از فکر زمان ابن عربی تا حالا ابن عربی عرضی زده و بعد هم کسی نتونسته اثبات بکنه خب شما این جاست بحث ما باش شما چیه؟ بحث ما اینه که آیا دلیل هست یا نیست؟ شما این بحثی که از مورد دعوای ماست که آیا وقتی شخصی دلیل دارد یا ندارد اینا ما فرض کرده و خب این چیز مصادمه مطلوب نیست کسی که بخواد بحث و غلایی کنه نماید مسادره مطرح کنه شما این جلسه را تشکیل داده چون و آیا وحتت شخصیه دلیل قابل قبولی داره یا نداره غیرینه عنوانی جلسه اینه براه اینه اثبات وحتت شخصی وقیشون یه عمر مسلمی میگیرن که از زمان ابن عربی آقایون رو بدن استدلال هایی گرفتن و نتونستن خب نتونستن که اول های کلامه چیزی که مدعایتون هست در اینجا میتونی میتونید استناد بکنید در نفیه دیدگاه من که شیبه من تقیی نشدید نتوانستن خیلی خوب اون نتوانستن رو به ثابت کنید یعنی اجازه رو هم بدید من برهانم رو بگم تعریف کنم حالا شما رو برهان من نه دیگران ما که حرف دیگر مطرح نکردم که اونا توانستن یا نتوانستن اما فقط ادعای و رو مطرح کردم و گفتم حد تا این ادعا اگر گوینده ای هم نداشته باشد قائل رو نداشته شما اینا هم میتونیم برهانی است هم نگفتیم ولی حالا تو این زمسه تو این نوبت هم چلوه میگیم پس منابراین تیجه اول بحثیشون کاملا مصادره است ربطی به حرف ما که نداشت هیچ سانیان این مساربه مطلوبه ما اصلا نزاع اون سر همین داشت که برهان داره یا نداره و هیچین قطعی میگیره چه برهان نداره این مساربه مطلوبه بحثای دیگه هم که این حال کردن ربطی به حرفای ما نداشت این که سه نکته مطرح میکنن که آیا چستت واقعیت دارد یا ندارد خب حالا این شما ادامه کنه که ما داریم ارتفاعی نقیزه می کنیم نه چه ارتفاع نقیزه ما اون رو معدوم می دانیم اما میگه معدومات نمیتونن حکم واقعی داشته باشن نمیگم واقعیت هست ولی حکم واقعی هم که داشته باشیم شما تی قرآن لو لوکانه فیه ما آلهتون الا الله لفسدتا آیا تعداد آلهه یک امر محقق است موجود است موضوع چه نیست چه؟ شرکه شرکه, شرکه محقق نیست چه؟ اما این امر مضمون احکام واقعی خواهد داشت توضیحش چگونه است؟ اون مرتب به بحث ما نیست به بحث ما ندارید ما برود نیمه خرم بکنیم ولی خواست هم میگم چه این شوالا یه این نسبتی اینجا به ما اصلا ما هم سهر بی ما همه همه ادعا همونو فقط گفتهیم و استدال هم نیورده این کل حرفاییشون تو فضایی بحث ما نیست اون زم که مربوط بود مصادره و مطبوره ایمانه ای؟ این نه اجازه بفرمایم با در دل نمیشون خب حاجم آقای مصادر بفرمایم ما توافق کردیم که مرکز استقل بحث همین باشه شوه. که برهانهایی که ما میتونیم به حصاب عقلانی وارد بشیم برای اثباته وحدت شخصی ما حتی این طبیین هم گفتیم این به عنوان یک کار و قدماتی ورود پیدا میکنیم بحث اصلیه بندباهیشون به پیشنهاد خودیشون اینه که آیا برهان دارد یا ندارد و اگه دارد برهان چیه اما اگه حالا بریم توی فضاهای دیگه این خروزی از توافق ما کاری به اون نداریم نداری اینکه ما رو موجود بدانیم و یا موجود ندانیم. ارزشش چه قدمه؟ دومه بحثه اول ما رو روشن کنیم که وحدت شخصی را اثبات داریم براش چه نداری؟ اگر اثبات شود، بعد شما هم میتونید بگید که خب حالا این کثراتات رو تو توضیح می‌کنی. اصل شیوه اقلیش نه چه قدم به قدم اون چه هست؟ ما این که یه مسئله ای را که مربوط به گذروندن یک مرحله از حالا بخواهم وارد بشی خب نمیتونیم مثل این که در واقع شما هنون به خانه نرسیده ای بخواییم مثلا در خانه تغییراتی ایجاد کنیم خب برو اول تو خونه اگر رسیدی تو خونه وقت بکنیم خب این چگاه کنیم اینجا زشه پس ما اول باید ببینیم آیا اصلا دلیلی داریم بر وحدت شخصی وجود؟ خب شماها کنید که دلیل نداریم نداری؟ وقتی نداشتیم چه دیگه خب لزومی شو نداره چه خودت به زحمت بندازه که باید از راهی به صلاحه توضیحی که اثرات وارد بشه. خب بخو نداریم این اثرات هم که حرفو اما اگر که چی داشتیم یعنی وحدت رو تونستیم ثابت کنیم، برهان داشتیم بر وحدت شخصی وجود خب شماتون اعتراض کنید. خیلی خب پس این واقعیت هایی که من اینجا اونجا در ظاهر بشاهده می این اینا چه توضیحی داریم چون هنو یک مرحل اول را تینه کرده میخواهی از نسوال کنیم چه اونزا چی کامی کنیم خب بسه اینزا رو روشن کنم که اینجا چه چی میشه روی این مبنای روشن این قدم اول و اون قدم دوم روشن میشه من الان وارد بشم مبتنی بر بیان قدم اول که اصل بحث ب عنوان منتشر شده هم همونه یعنی از نی شما اونجا رو ببینید تجوره چی میشه تطلیفش تطلیفش شخص شد اگر کسرت پذیرفته شد که خب دیگه پس همونه که شما میگید لزومه زمان نداره که ما بحث کنیم توضیح بکنیم کسر همونه چیم اگر نه وقتت ثابت شد وقتت وجود خب حالا این شما میتونید پس این کسرهات چی کرش میکنیم پس این شیبه یه ای اقلایی اینه که اجازه بدین ما خود برهان را دعوا مشخص شد. دعوا اینه که وجود لا هیچ نوع توش نیست. نه چه و اصل حقیقت نه چه و نه چه و مرتبه این هیچ کسیتی نداره اما این میتواند تزلیات گوناگون داشته باشه چگونه او قدم دوم برسه حالا اگر که از پیشه که اجازه و وارد استدلال بر برهان بشم برهان رو مطرح کنم تا وقت ببینیم برهان به نتیجه میرسه یا نیمیرسه اگر رسید که خوب وقت قدم دوم همه که نرسید چونها از اول اطلاوت ثابت شده دیگه کاری بایید نیاز بایید و همه برهان نه اجازه کار بود برهان نیست برهان بود یه چیزه اگر ما تصور نکردیم مده های شما تصورش چیز... که ما, ما روشن کردیم اون چه که ما روشن کردیم که چی را میخواد اثبات کنید نشو همون که دارید اثبات نکنید من معترضم دریشه شما خیلی اون مددهایی که اش اجتماع... جواب بدید. خیلی خوب. اول. ما این مددهای به قول شما ثابت کنیم. من میشم چیزی. خب میگیم که حالا خوب, همه... خوب. اول... اول... کنید. این ادعای اول... به اگر اگه درست باشه که شما هرچی اثبات بکنید مقابلش هم باید اثباته. ما یه ادعایی دارید با تسلم میگیرید. میاد میپرسه سوال میکنه پس اجازه بدید ما اون ادعایی که زمین را به همشیه که عرض کردم ادعا تو روشن نیست اصلا بدید من نمیدونم من نمیدونم من دارم انگار وجود ببینید وجود رو من قطعا روشن کردم وجود یعنی همون حقیقتی که مقابله عدم نقیز عدم است که با هم دیگه بخواد جمع بشه میشه نسخه نقیزان این وجوده به این معنا هیچ کثافی نداره نه که تو مشا یا مطرح میکنم نه که به حساب تعدد مصداقه یک حقیقت قابل ترهه نه که به حساب مرتبه باشه خود این هیچ کسرتی نداره یا ادعای نمفهومیه نه پایه در وحلت شد پس اجاز میداره شدید شد. همین دوری بگردیم و 59 جلسه بحث کرده ده ده دو ما بحث, بحث اگر, اگر خودش ابهامش ابهامش کلامی که کردم وجود که نقیز عدمه این که ابد بدی حیاتی شبایی که در مورد عبده بدیهیات مشکل داشته باشیم پس چیه دایه به دا حتی امتناه تناقض ده اگه چیه نه مفهوم وجود در مقابل نه مفهوم خب, مفهوم خب همون مفهوم رفت دیگه. چند. پس دیگه حالا بخوابین از مفهوم وجود که ما درباره او میگیم که آقا این مفهوم شوانی برد سراغی مستاقی اون اصلاق این مفهوم که برای خود مفهوم روشنه هیچ تعددی نداره تعدد روشنه تعدد روشنه چند تا مگه آقا این مفهوم وجود که معناش بدیهیه و با عدم هم بدیهیه که جمع نمیشه اجتماع نقیزن یعنی همه چیز بدیهی مفهوم بدیهی حکم بدیهی حکم اجتماعی نسبی بدیهی کثرت چیه چندگانگی چند تا بودن میگه آقا این الوجود که شما رو میبره سراغ مساق خودش هیچ تعددی نداره تعدد هارم رو روشن کرده بده خب، که به که... حسب تعددی, تعددی که به حسب هم سه دو کثرت گفتید انواعشون نمیخواه آیا کسرت امرو واقعی است همون چیزی ممنون میدونیم وجود کسرت نداره این متوجه شما هست سه تا مقدمه مقدمه اول وجود در مقابل ادم مقدمه دوم وجود بسیط است لا به شرط مقسمی است کسرت در اشراح نداره مقدمه سه بون وحده شخصی وجود این است کسرات حقیقت دارند شما تخصیحن... خود رو داریم و قرده میبینیم من اه. که بیان شما اگر بر... بگم ایشون بر... که ایشون, نشت... نشت... ایشون, م... ایشون کسرت رو کسرت رو قبول ندارن. هیچه. شما نمیدیم نشه چیه؟ پس نظریه شما نظریه ایست که اصلاسا کسرت رو منکره خب ولی کسرت کسرت متعلق به وجود رو منکرم وجود که مقابل ادمه پس کسرت متعلق به ادم رو شما قایدید بله کسرت متعلق به ادم قایدید والا بله دیگه یعنی بله. یعنی یعنی, یعنی یک ماهیتی داره یه مصداقی خب... ماهیت کثرت روشنه چونه آیا این ماهیت مصداقش وجود هست یعنی خاص خب نمیگم نیست دیگه خب مستاقش وجود مستاقش چیه م... ادام نیستیه که مساق کسا چیه وحدت شخصی وجود معناش دو تا بال داره یه بالش این است که وجود واحد شخصی وسیط است لا به شرط مقصد شما وقتی بکنی خدا شریک, خدا شریک خدا نداره اجازه می فرمانید خدا شریک نداره خواهر بکنیم نداره مساقی چیه اجازه می فرمانید اما مساق نداره مساق نداره یعنی عدم. بله بله پس شما ولی عدمه هرچه در عالم ادم هست یک واحد بسیط مغزه خب باشه بعدش چیکار میکنید همین اولا این کسلات نظریه هم بحث میکنی بذاری من تصور بحث ها تصور چیزی نظریه وحدت شخصی وجود یک نظریه هست دو پایه داره یکی این از است که وجود لابشرط مقصمی است دوم اینکه آقا این تحلیل شماه من که تابع تحلیل آجا. شما, شما نیستم سمت. سمت. شما بعد جواب بدید اجازه من دوشن کنم شما ای سه این سه مقدمه می شما باید. میگی اینا که, که من نگفتم من حرفم بزنم نه شما حرف زدید دیگه شما دارین میخوادودی از مدعا برید سراغ دلیل و حاضر نیستید مدعای خودتون رو توضیح بدید مدعای انسان عاقل مدعا رو بفهمه من میگم یک کسی اگه عقلش رو قازی بکنه دائر به اشتباه لغی امطراح اشتباه لغی یا امطراح لغی زن باشه مدعای شما اصلا فهم نمی کنه اصلا فهم نمی کنه شما در این کتاب با اصل انطلاق ارتفاع لغی تمام تاریخ فلسفه در این سوال بردی بله چه جوری نرسید بابا اون یه فالی به نظره خود شما که این اصلا که اصل اون کتابو ببینید چه بی رفیش رو آوردن او چهتاب ما در این به صلاح یک نوع فلسفه داریم ما ترخ میکنیم فلسفه یک وقت شخصی وقت شخصیه شخصی نیست چهتاب نخونده راقب به وقت نداره دی. این چیه این کتاب چی میخواد بگی شما قرار این چه اون اینکه اون با بحثمون سر این کتاب بوده خب شما این کنید که آقا در باره آقای فوانی کتابی نوشته در کتاب حرف نظر مربوط به این ذرا نداری که اون کتاب طرحی یک فلسفه و مبادی خاص بحث ما که سر بحث شخصی نیست اون کتاب چه حالا من کتاب را تمام کنیم بریم ها نه نه نه صحبت کنید قاعده بحثی بندم ده دقیقه صحبت ده دقیقه ده... کنید کنی. من جمله بگم شما واسه چی که ای بحث این بحث این که شروع به ادله ما نه نه نه اجازه الان جواب دادید گفتید اما عادلله گفتم نه برادر اول طبیعی پس گفت پس تو صحبت من شما, شما رو کردی شما رو کردی خب شما خلاف قولی بسری می‌دید ما جریان صحبت یه لحظه خودتون توضیح بدید درستو بیان زنده خدا خیر لحظه حالا حضرت عالی خودتون وارد یه بحثای میشید اینکه تا به حال در عالم نگفته کسی نیست عقلانه نیست وحدت شخصی ابن عربی چی کرده این بحثه که اصلا بحثه نه نه ما نبود ببین از اولم بحثه ما همین بودش حالا گفتم جواب نده. نه نه نه نه, نه. من مده نه, مده نه ببین اصلا این بحثه ما نبود ما قرار شده بشت این که شما میگید هیچ کس نگفته این نیست من میگم عمری رو در این کار خواهشاً من چیزا بزنید کنار نه نه, نه. ببینید اصلا شما اصلا خوبه درست وارد مو... خوبه پس هر نمیخوام جواب جوابی این نظر میگه شما شما خب وارد میکنید از آقای بچا هم میگه آخه این چه رفتی بس داشت من این عموم محض بکنید داره رفت دار تو تاریخ ببینید من سر تاریخ محض دارین شما شما داور من داور اجازه شما داوری در هم میشه اینجوری ببینید من دارم چی میگم بنده دارم میگم روش عقلانیت وحدت شخصی وجود که موضوع بحث ما میخوایم ادله بررسی کنیم بنده به عنوان کسی که تاریخ این بحث رو میخونم میام تا از ما ناهزا میبینم استاد بزرگ عرفان و فلسفه حوزه میگوید تمام ادله که بر این موضوع اقامه شده همه باطل الا نظریه صدیقین علامه طباطبایی خب وقتی که شما میگام ۹ نمیتونه آه، اه، رو... نه، نه میتونه دا... داوری شماست الان دلیل نمیارن اصلا میتونه دلیل... یا نمیتونه شما کنار میخوام بدم نه جای که نه از کواسون باشه ما وارد ادله عقلی میشیم که قبل از او ست تا از بزرگان خب. وارد شدن و همه معدله امروز منقوزه خب بله حاج آقای اشاقی هم مدعا شون دستن این دستن دستن این دستن... دستن که من میتونم این کارو بکنم چرا بزرگم. شما پیشینه ای رو میسازید که هیچکس کس نتونسته آقای جوانه مگه سلامی بحث میکردیم ما باید تاریخ شیه بحث رو دارم نگیم هاز آقای بحث رو بحث رو شما فقط گفته مدعا رو هاز آقای اشاقی بگم منم هم چی میکنم؟ بحث عادت وارد میکنی؟ داره که نه. به اندازه اون زمانش بحث بکنی دو براور اون زمان بحث, بحث نه خب بحث بکنیم وارد بحث, زب... شما... بحث هر ما به شما اجازه دادم من دا من اینجا داوری شما رو پذیرفتن در این حال دار تمایل دارید با نه اجازه من میگم بس من به شما ارادت دادم اجازه آقای سبحانی اجازه وارد يعني... ده دقیقه وقت وقتیشون دادی باید باید ده دقیقه وقتید من حرفم بزرم 20 دقیقه کرد. شما صحبت کنید من هر صحبت کردم شما دو برابر صحبت کنید ولی میگم مراعات منطقه وصلش دو باشیم من یه اشکالی کردم شما به اشکال پاسخ دادی هر دو جوابی گیردی رفتی وصل من ندارم من حق دارم بهش جواب بدم من حق دارم بگم آن مسادر محدوب نکردم تاریخ چه گفتم تالشان بدم دلیل شما بعد از همه عدله ایست که تا کنون رد شده این قدائی شما این ای نداره بزنید حرف بزنید بزنید حرف بزنید تو بحث هم رفتن فایده نداره بله. ما همه رو بتونیم حتی مدعا رو ثابت بکنیم همه آقایون فکر میکنن میرم کتاب شما رو مطالعه میکنن آثار دیگر میبینن چرا رو اون کتاب ببینید انتظام ایشون زنده هستن، میدم. شما زنده هستید، اشکال کنید. اصلا کتاب هر چی که به واسه نکنید. کتاب است. چون نگاه شخصی، وقت شخصی نداره. بله. کار همه این که سوال بیستی که فلسفه ببینید صریحا گفتید تمام فلسفه شبه فلسفه بله بله فلسفه, بله بله بله فلسفه, بله فلسفه, فلسفه, فلسفه حالا این با که بحث نمیشن این حالا ایشون بگه همه با که ایم نداری آخه دست این من تصورم نیش خوزه جور دیگه بسینیم من وقت این بکنم حضرات صحبت بکن دیگه آقا آقای خواهشند تو هم دیگه نشند من دیگه میگم که آقا شد یا نشد طبیعی این باید صورت بگیره اشکال بشه ایشون هم حاق به نظریه خود شو بگم بعد وارد در درده بشیم خب آقا جرای خب. اشاقی اگه خب. پنج دقیقه کافی هستش دقیقاً بفرمایید مدده ها رو باید که فرمود قبلش دوباره بفرمایید شما پنج دقیقه بگن که چه. اشکالی دقیقاً به مدعا دارن بدون هیچ تاریخ و پیز هست. مدعای شما دقیقاً به وحدت شخصی, من شخصی من وجود من توضیح اینه درسته کسرت این... و وحدت یک حقیقت میگره اینکه موجوده یا موجود نیست این به صلاح وجود عدم میتونید با اون تعلق بگیره وجود نبه بنایی کسرته نبه بنایی وحدته اختلاف مفهومی داره مفهوم کسرت واضحه مفهوم وحدت هم کسرته آیا یکی از مسادیق کسرت وجود است یا نه کسرت هم انواعی داره یه کسرته چی داریم؟ به حسن اصل حقیقت داریم ما انسانی اون مورچه هم چون را میره ما اختلاف در اصل حقیقت داریم یعنی ما و او متفاوتیم ما متکسریم چرا روانه که تا حقیقت داریم پس اختلاف یک وقت از چی نشعت میگیره؟ از اختلاف اصل حقیقت و کسرت اینجا درست میشه یه وقت اینکه نه نه مربوط به یک حقیقت نیست حقیقت واحده اما مسادیر متعدد داره کسرت ها به در واقع مصداق یک حقیقت ارتباط پیدا میکنه. مثل که شما این انسان یه معنا داره ولی افراد زیادی در تحت اون داخله. اینم یه نوع کسر. کسری که مصداق میسداق چیک میگیم؟ یک کسرتی هم داریم به حسب چی؟ رتبه یک حقیقتیه. نور عقلت تشبیهیه. یه شاه نوری اولش با آخرش متفاوته، یک نو فساد درست میکنه. این کسرت کسرت تشکیقی او عارف ادهاش اینه که آقا تو حقیقت وجود وجود چیه؟ وجود معناش روشانه همونی که نقیز عدمه که معنی بدیهیه این چیزی که نقیز عدمه است خودش نه تزلیاتش که یه بحث دیگری خود این نه این طوره که کسرت به حساب حقیقت تو شکل میگیره اونطور که من شایانگر. نه چسرتیه که چی درش به این صورت به صورت چسرت بگیره می میگیره که یه حقیقت واحد باشه مصادیق متعدد داشته باشید. این هم نداره عارفی نمیگه و همچنین چسرتی که به حسب چیه مرتبه است مرتبه فلواقع چیه میتونه در یک شیعه واحده به با دارای مصداق تعدد ایزاد کنه یک شعه نوری را ما میتونیم اون جلو شد به این عقبش متفاوت بدانیم یعنی حقیقتش یکیه یک شعه هم هست یک مصداق از شعه اما خب اول آخریش متفاوته یک چسرت درست کنه این سه نحوه کسرت در امور متکسره قابل فرزد. قابل تعدد. معنای کسرت رو اشند شد نوع کسرت روشن شد متعلق کسرت روشنه هیچ ابحان پس دیگه این زباقی نمیمونه ادعای عارف اینه که آقا این وجودی که مناقض ادم است، نقیز ادم است. این نمیتونه به هیچ یکی از این انهای کسرت متکسر باشن اما این ما سواییه به صلاح حقیقت وجود که به اجلیات این مسعد هستن اونها چرا میتونن متکثر باشن و متکثر بودنشان توجیه عقلی داره این ادعا روشن و اما استدلال اجازه یه لحظه مزاره. یه لحظه ببین حاج ها... نه ببین حاج آقا ما رو می که این که رو می ببینید الان پس ایشون میفرماین که این کثرت واقعا به حقیقت وجوده یا به مصادیق به رتبه ما اینا قبول نداریم و فقط کسری کثرتی قبول داره. بله، نوع کسری قبول دارید؟ کسری در وجود کسرت دیگه پس خب. این سه نوعی که بقیه ملتزم شدن به در حقیقت و مسادی بررده. خب، ایشون این سه مدل کسرت رو قبول ندارند. که یعنی کسرت در وجود خارجی رو قبول ندارند یعنی موجودی که وجود داشته باشه، کثیر باشه. اینو قبول ندارم. حالا به مقدمه شون این بود وجود نقیض عدمه و هیچکونی کسرت نداره وجود نقیض عدمه یعنی هر چیزی در ساخت و کیان وجود نباشد میره در کیان عدم یعنی نیست این وجود هر دوی کمالات هیچ گونه کسرت نداره با شوبوردن انواع کسرت هم چیزی حل ندیشه هیچ گونه کسرت نداره هر گونه کسرتی که شما فرض بگیرید در وجود راه نداره من بالاتر از کردم گفتم پس وحدتش معنای لابشرطی محضنی است یعنی حتی تعین به اطلاق نداره یعنی در این حد وحدت داره و خالی از کسرت. این نکته دوم تو اینجاش مشکلی نداریم فعلا مشکل قضیه این است که شما ادعا میکنید که کثافت هم واقعیت داره ببینید تفاوت دیدگاه عرفای شامخین با جهله صوفیه در این سومی است چون نمیتونید در مددهاتون سومی رو رها کنه دیگه من دلیل میارم برای اولی جهلی صوفیه فرقشون دیگه خود عرفا گفتن فلسفه گفتن هر کسی در این باب سخن گفته آورده فرد میان جهلی صوفین و اورما عرفای شامخین در این سومی است این سومی چیه که میگم درست است که ما میگیم وجود بسیط محض هیچ گونه کثرت نداره اما در اینها کثرات هم واقعیت داره تحصیل و تحصیل در هست میزه بین اونها وجود داره سآل میکنیم همه که فرمودیم که کسرات کجا هستن؟ اگه در وجود نیستن اگه وجود رو متعین نمیکنن، اگه وجود رو از اون حالت وحدت بسیطش منسلم نمیکنن، پس چی هستن؟ میگیم یه نمودی هستن تجلی وجودن ما سوال میکنیم تجلی وجود نمود وجود وجود هست یا آدم؟ شما پذیرفتی که ام دائر ما بین وجود و عدم وجود در مقابل عدم معنا کردی وجود در مقابل عدم راه نمیگذاره بر اینکه این نمود یا تجلی یا باید داخل وجود باشد یا داخل عدم باشد شما که نف کردید داخل وجود باشد پس باید داخل عدم باشد یا نباید باشد میفرمادید عدم هم نیست من میگم امتناع ارتفاع نقیزه صادق است کسلاتی که شما میگویید وجود نیست چون وجود بسیط بحث است عدم هم نیست چون براش واقعیت قائلی شما با این امتناع اظهار نمیگن چه میکنی؟ کنید اشکال اول من خب اشکال دوم که پاسخ ندادید این بود که لا بشرف بگید اشکالتون را اشکالتون بگید اینو بس کنید بعد دوباره من خب. اشکال دوم وردم دو. اجازه واسه الان معلوم شد ایشون اشکالشون اینه شما ایشون قبول دارن. شما تو بحثتون فرمودید ما نافی همه کسلاتی هستیم سوال میکنن کسرت کجاست تو تجلیات اگه تو تو تجلیات هستش این وجود هستن یا عدم هستن اگه بعد این بحثی بکنیم بخوایم بکنیم باید وارد اذهن بشیم ما که بحثی بزنیم برای برای چه قسمتی می‌زنیم برای این بحثی ای اساس بزنیم برای اون بحث کلا از بیگ بله نظر شما امتناع شما با همین امتنا نظریه دیگر رو رد کردید، من هم با همین نظر خب امتنا نظریه. خب، نهایت فهم که این نظریه، این نظریه چیز هستش. این نظریه منجر میشه به اینکه بحث استوانه رفقا نقیزم. بفرمایید، میشه بدید. خب، ببینیم من اینا از یه تو بحث قبلی‌ام یه کاری کردم. فرق هست بین اینکه ما حسرت رو خودش رو مصداق حقیقی واقعیت بگیریم. یا این که بگیم حکم واقعیست با هم فرم کنه ببینیم مثال لوکانا فیه ما آله الالله را در نظاویرین تعدد آله هم ریست منتفی محاله اما فرض شده که اگر آلهی بود لازمش یه فساده فساد آلم آیا موجوده یا معدومه ما الان ما فساد اله فساد عالم نداریم. تالی باطل واقعیت نداره. اما اگر فرض واقعیتی برای یک شی کردی با این واقعیت ندارد اما حکم واقعی یک امر معدومه. ما که الان فساد واقعی نداریم که فساد واقعی امریست از چیه منتفی واقعیت در جهانه هستی منظم واقعیت داره و از هیچ فسادی هم تو حاکم نیست خدام در واقع به همین استدلال کرده یه دواشون اگه تعدد آله رو بپذیری برد فساد رو هم بپذیری با این که نه تعدد آله موجوده واقعیه نه نه فساد مد... اما این که این حکم واقعی اون امریه که فل واقعی معدوم است این امر مسلمی. پس به صرف این که حالا ما اگر ما سوای وجود را براش یک معدومیتی قائل شدیم ما میگم ما سوای ذات وجود معدوم است اصلا. اما معدوم بودن اون منافات نداره که مثل همین عمر ممتنه که یه حکم واقعی داره حکم واقعی داشته باشه آیا شما اونجا میگوی اجتماعی نقیزن یا ارتفاع نقیزن شده؟ قطعا نیست پس به صرف اینکه که خود یک عنوانی مستاق عدم بود این معنیش میبیشه چون نتونه حکم واقعی باشه فساد یه مستاقی از عدم است. در اینجا مستاقش هم سی که تعدده آله باشه اونم عدم است. اما این چی... این به نحوه واقعی این معدوم این حکم واقعی رو واقعیه. پس به صرف این که چیز معدوم شد معنیش نیست که حکم واقعی نتونه درست بکنه اونه که آرفت میگه اینه میگه بابا ما سوای ذات واقعا مستاقی از هستی نیست اما تو همون فضای وجود اعتبارات ما میتونیم احکام واقعی داشته باشیم حکم واقعی داشتن منافات ندارد با معدومیت شی. چنانچه که آلهه م... معدوم است هیچ واقعیتی ندارد اما حکم واقعی دارد حکم واقعی چیه؟ ترتب فساد به نهب واقعی با اینکه متعلقش چیه معدوم است، پس خلطه محفظ نکن آقا عارف ما سوای ذات حق را میگهد معدوم است مثل مثلا فرض کن صورت های آینه که شما را نشون میده اون شخصی که تو آینه هست واقعا شما نیستی معدوم است از این جهت که بخواد شمای حقیقی باشی باشه. اما خب این تصویر تو آینه و اینکه که از این جهت از همین جهت معدومیت که احکامی را دارید به نحن واقعی پس حکم واقعی بودن و حکم واقعی شدن این معنیش نیست که حتما و شما تمام محالات شما یا احکام واقعی براش داری شما نمیگوی تناقض محال تناقض آیا واقعیت داره یا واقعیت نداره معدومه اما حکم واقعی نداره محال محال بودنش یه حکمشه حکم حقیقی واقعی هست رو بگو مو گوی اجتباه نقیزن محاله اجتباه نقیزن تحقق داره؟ نه اصلا ممتنه عدم محضه همه حکم واقعی داره اون حکم واقعی داشتن غیر از این خودش مصداقی از عنوان هستی باشه پس اینا ها نباید خلق مبهز بله بخواهم این چه خب نبینید داره که نظر من بحث میرست من جایی که مورد نظر هست که انشاءالله هم یه دوتا بخشی دیگه بکنی میرسیم و اون مده های دوه شما پذیروخت هست که این قدم پذیروختی که کسرات نصداق معضوم و این باعدایی این که بگیم کسرات واقعیت دارند تفاوت میکنه و تناقض میکنه واقعیت داشتن یعنی دارای اثر بودن دارای اثر بودن یعنی حضی از وجود داشتن به هر شد. شکلش برن کار ندارد، تو برهان میکاره. ولی همین که شما میگویید کسرات واقعیت دارند، یعنی کسرات دارای نوعی از تأثیر هستند. همین که میفرمایید کسرات معدومند یعنی تأثیری ندارند. مثال میزنید؟ آن را نکردند. بلن... نم. نم. نم. نم. نم. نم. نم. نم. نم. نم. نم. نم. نم. ببینید شما اول من این عبارت رو نوشتم در اینجا بارها گفته شده در هم دو کتاب تو عبارتون چندین مرتبه گفتید کسرات واقعیت دارن میفرماید ندارن من نظریه همون جهلی صوفیه رو میگم که میگم جهان واحد یک پارچه است کسرات همه موهوم است اونم بحث کنید اونم بوش استداد میکنید اما ظاهرا اینجا نظریه عورت های شامخین مورد بحثه یعنی فلجمله تأثیر خارجی دارند این که می دارای حکمت مثال میزنید به ممتلعات امر عجیبی است یعنی شما رسیدید به این نقطه که می‌خواهید بگید کسرات ممتلع ذات هستند کسرات ممتلع ذاتن یعنی کسرات هیچ گونه خارجی به این نهب امکان ندارند دارای اثر نیستند عالم سراسر واحد محض است به کسرات موضوعند به این نظریه یعنی شما من اصلا سوال. کی نه من کار شما خوب نیست شما میگید جهله یا غیر جهل بلدش کن عبارت شما بگید نظر خودتون چیه خود ما کارو اون تا مش... تا این بار داره این کلمات در شما سم رها کنید الف یا به نه خب نه نه من داورم ولی شما کلمات شا... استاد هستن من قبول دارم من هم هستم من ولی اینجوری نگی کلام کنید خب مان مولا صدراست مان حاجی سبزواریه مان این یعنی حاجی صدر کردنه شما دیدید شما میگی جهلیان آقا متوسن بس بگید نظر این یه نظر وجود که بهش گفتن جهده صوفیه اینجا ممنون نمیگیم خودشون گفتن ما نمیگین. اینا معتقدند که وجود واحد بسیط است در آلم هیچ مونه نیست کسرت موهوم است حقیقتا موهومه کسرت معدومه هیچ تصحیل تأثیر تأثیر ببینید؟ اینا همه وهمه خیاله یه نظریه وجود دارد که میگود نه اینا اشتباه کردن درست است که وجود واحد شخصی لا به شرط است. اما کسرات واقعیت دارند. استاد اینجا از این نظری ای دارن دفاع میکنن بارها گفتن حداقل تکتیف ما رو معلوم کنن اگر کسرت واقعیت دارد با معدوم بودن به معنای مطلق تناقض دارد نمیشه یه چیزی واقعیت داشته باشه یعنی دارای تأثیر فیل در بیرون باشد در این حال معدوم باشه مگر از معدوم چیزی غیر از معدوم تصور کنید یا از واقعیت چیزی غیر از وجود ام دائر ماوین وجود است به عدم اگر کسرات واقعیت دارن باید موجود باشن اگر میخواند موجود نیستن معدوم نیستن یعنی هیچ گونه واقعیتی ندارن تأثیر ندارن و اما مثالی گذدی دهزایا و گذارا دارید مثال میزنید بله ما بر ممتن الوجود افکار سادر میکنیم حکمی که بر ممتن الوجود صادر میکنیم بعد میگیم در عالم خارج ممتن الوجود واقعیت دارد. این وقتی حکم بر اعدام صادر میکنید تو خارج میگیم این عدم غیر از اون عدم است پس بلاوار این عدم رو محمول و عدم قرار میدیم واقعا ما در ذهن همه کاری میکنیم سوال در این است من و شما این جهان، این همه کسرات، ارتباطات طبیعی آیا این کسرات واقعیت دارن یا واقعیت ندارن؟ شما چگونه میگویید یه چیزی معلوم است اما حکم واقعی خارجی دارد حکم قصانیات یه حکم خارجی نیست شما یه مثال برای من بزنید نه مثال بزنید برهان عقلی اقام کنید که میتواند چیزی دارای واقعیت باشد اما هیچ گونه حسی از وجود نداره. چیزی در این حال معدوم است اما دارای تاثیر است. اثرش هم رابطه به وجود نداره اثر از یه جای دیگه اوماده. رابطه بین وجود نداره. رابطه بین کثرت و وحدت رو تو, تو نظریه اینجوری با توضیح. ده. خب اجازه صبحانی فقط ایشون حالا ایشون دقیق, دقیق معلوم دو... نزار خب دقیق بگیم خب. خب. مسئله شما ها رو شما اججواب فرمودید ما کثرات رو معدوم میدونیم اما حکم واقعی برش داریم. و مثال زدن به اون مهنی داریم نه حکم واقعی بردن ما میتونیم او رو محکوم به حکم واقعی بکنیم با چجوری؟ خب حالا چجوری حالا شما. میتونه کسرت وجود نباشد معدوم باشد بله. در این حال احکام واقعی با... باشه محکوم به حکم واقعی خارجی باشه بله این یکه محبوب... واقعی حجم... دارای تأثیرها واقعی دارای تأثیر بلا تأثیرها... ما برای معدومات و برای ممتنعات احکام صادر میکنیم ما برای ممتنعات هزار تا حد ساده آخرش هم میگیم آن ممتنع ممتنه از خارجن یعنی در خارج امیتناه اصلا فرض وجود هر فرض وجودش نیست اما شما وقتی میگید کسرات در اینجا جا دارن میخواد در آخر بگیده هم من و تو حقیقت وجودی هست حقیقت اینی هستیم یه تأثیری داریم من غیر از شما, شما غیر از من تو حکام قضاییار بزنید کنار بگید در عالم خارج حکمی میتوان حکم خارجی صادر کرد در حالی که شیع کاملا معدوم است و هیچ ارتباطی با وجود ندارد این ارتباطی با وجود ندارد این ارتباطی با وجود ندارد من وزد میکنید خود کسرات وقتی تعبیر کسرات بود. در اسطلاحات کسرات یعنی این این این, این, این. یه وقت کسرات یعنی مسادیه یا خود میگن یعنی شما به ماهیتش دارن وقتی میگوی کسرات واقعیت دارد ما چه حرف نمیزنیم و همین است که داریم نفت میکنیم واقعا شما ورای ذات حق چیزی به نحوه حقیقی نداری به روز روایت امام صادق روایت نه خدا واره ازش. ازش صفر. ازش صفر. خداوند شعی به همینیت یعنی دیگران ما سوای ذات شعییت بلعرز و مزازی دارن ما کسرات رو واقعی نمیدنیم اما این امور غیر واقعی میتوانن حکم واقعی داشته باشن ایشو میگه تو ذهنه وقتی شما رو مثلا دور غیر تسلسل است فقط مفخومی ز... مفوم دور تسلسلو بگین غیر همه یا مطابقش هم بگین متفاوته دور یه تعریفی داره یه مطابقی داره مطابقش هم محاله اما این یه است که تو متن واقعه با یه محالی که به نام تسلسل شناخته میشه تو متن واقعه متفاوته با اینکه هیچکدوم موجود نیست این حکم واقعی داشتن به معنای موجود بودن متعلقش نیست شما تناقض را با تضاد متفاوت میدونی تناقض یه شرایطی براش هست تضاد تق... یه شرایطی دیگری هست تضاد تقابل دو عمر وزودیه تناقض یک امر وجود یک عمره چی فقط مفهوم این دا تا که متفاوت نیستن که. هر چیزی که بخواد مصداق واقعی اینم باشه ولو بله فرض تو متن واقعی اون قیریت حکم واقعیه نه که من تصورم این باشه تصور که خب درسته اما این تصوره درسته تصور درسته همچه یعنی من طبق با واقعه واقعش که مستقله از منه پس به صرف اینکه چیزی حکم واقعی داشت این منش این که اون مصداق موجودم هست دور متفاوت اصبا تسلسل و تفاوت واقعی هم داره نه که من فقط ذهنم تفاوت بفرده تفاوت من فهم از واقعه که تو ذهن منه فهم از واقعه پس تو متن واقعه او متفاوت از با تسلسل و در این حال نه این موجوده نه اون موجود در احکام ارفان هم همینه میفرمان ما موجود حقیقی دوت خدا قدره بقیه تجلیات اون حقیقت موجوده و اینها احکام واقعی داره همونطور که دور حکم واقعی داره اونم واقعی واقعیته اینا پس اینار رو خلط مبحث نکنی نگو حالا تو گفتو حکم واقعی پس این پس موجوده نخیر موجوده دور موجوده میگه تسلسل موجوده میگه تناقض موجوده هیچکدوم نه موجود نیستن ولی با اینکه موجود نیستن به حسم نفس الامر دور غیر تسلسل تناقض غیر اتی تزاده و چه زایی دیگه احکامه دیگه که محالات و معدومات در پس اینا رو نمار خرک کرد و خیلی روشنه مدعه روشنه اضافه فرمان وارده خب قضا یه لحظه فقط ما به نه میخوام میگیم که بنابرای وعده اولمون قرار شده دو بسمت بکنیم بس رو, رو یا نه خب بکن که یه جایی برستیم نه بفرمال. ا ایشون دارن یه وا میگن و یه وا واقعیت داره. میگن گفتن اصف. محکومه. بخواید دقیق بگید م... فرمایید. من آم. اینجا هستم بعد افراد از سر شما میفرمایید واقعیت داره. مثال واقعیت چه من چی گفتم واقعیت گفتم. به حکم واقعی دادم. خب همین اصلا واقعیت داشت. گفتم محکوم به حکم واقعی. همین میخوام بگم. خب حکم واقعی دارد نمونه هایی رو که شما دارید میارید از ممتنعات و معلومات و زاتها و همه هم من قبول داریم که ممتنعات دارای یا احکام هستند احکامش هم واقعی است اما احکامش واقعی است یعنی حکمش واقعی است که در خارج ممتنع است وجودش حکم ادم در... واقعی است که ادم در این واقعی است متعلق این موارد اجازه بفرمایید شما دارید مثال به ممتنعات و معدومات میزنید بله ممتنعات و معدومات احکام دارند ولی حکم عقلی ممتنع این است که در خارج ممتنع است حکم عقلی معدوم و عدم این است که در خارج معدوم است حکم تمایز میان دور و تسلسل این است که دو معدوم بلکه دو ممتنع با هم دیگه تفاوت می‌کنن تمام احکام واقعا حکم واقعیش واقعا واقعا اجازه, اجازه, اجازه واقعا من دارم واقع اجازه توضیح کنید چیزا دارم اجازه توضیح میدم دارم توضیح میدم اجازه بدید من دقیقاً آخرش توضیح میدم من میخوام بگم آه. احکام ممنوعات و معدومات دیگه ما وقتی میرسیم به اینجا میخوام عرفان توضیح بدیم یادمون نره یه منطقی هم داریم یه فلسفی هم داریم یه تعقلی هم داریم یه ما بادمعاقل داریم حرف اون چیزی که در باب احکام معدومات و ممتدات به ما یاد دادن و حکم عقلیس اینه درست است که حکم آدم واقعی است ولی واقعیت و حکم آدم این است که در خارج معدوم است معدوم است حقیقتا وقتی شما میگید شبکالبار اون واقعیت داره حکم واقعی است اما حکم واقعیش این است که تو خارج ممتنع است یعنی اصلا فرض وجود ندارد نه که وقتی میگیم احکام ادم و ممتنع واقعی است یعنی توی خارج بگردیم بگردیم یه چیزی هم اونجا وجود داره به نام شریکلواری یا به نام فساد من یه جوری دارم شروع کردم پس بنابراین وقتی شما میگید احکام معدومات و ممتنعات واقعی است دارید دقیقاً بکنید و داری بنده رو یعنی می‌خواد بگید هر چیزی را که از این ببند من معدوم گفتم در خارج نباید باشد نباید باشد حق ندارید بعدش بگید نه انسانم هست زیده امرو بکرم هست چون من گفتم احکام واقعی اولا بسیارید سالیه جوری انجام بدن شما میفرمایید ممتنعات و معدومات حکم دارن حکمشم واقعی است با شما همراه هم آیا بین معدوم و احکامش و متحقق و مقابل معدوم مقابل معدوم و احکامش فرق میگذارید داره آیا شما معتقدید اون چیزی در عالم وجود دارد، همه از سلخ ممتلعات و معدوماتن هن یا بعد از که زین از وجود واحد لاوشت کردید میخواد بین معدوم و متحققا فرق بگذارید میخواید بگید تجلی هم چیزیست و مقابل تجلی هم است. میخواید بگید که این تجلی و نمود تحقق بیرونی پیدا کرده یه مقابلی هم دارد که اون ممتنع همین که در مقام تجلیات شما فرق میگذارید بین تجلی که وجود تعقب دارد و ای که تعقب ندارد پس معلوم است که احکام ممتنع و احکام وجود متقابل الله شما بخواهید نتیجه بگیرید که لاوا از زمانی که ما وحدت شخصی وجود درست کردیم دیگه اوضاع نمیریزه به هم دیگه فرقی نمی کنه. یا امری ممتنه به ذات خوشد یا امری ممکنه به ذات خوشد یا امری واجب به ذات خوشد همه اینا واقعیت دارد الاسقی دیگه چون نمیتونید حرف رو بزنید باید بین ممتنه و عدم و واقعی بودن حکمش و وجود و وجود و امکان و احکامش فرق بگذارید همه که دارید فرمید بین ممتنع و واجب در حوزه تجلیات معلوم از حکمی که بابر ممتنه بار میکنیم حکم واقعی نیست حکم واقعیش اینه حکم واقعیست حکم این است که در خارج در مرحله تجلیات هیچ امر ممتنعی ای تحقق بیرونی ندارد معدوم است محال از تحقق پیدا کنه شما چجوری برای چیزی که محال است تحقق پیدا میکنه بعد میخواد یه حضی از تحقق و تحصیل دارد مثالاتو نب مثال به علفی گزاره ای که موضوعش یه وجودیه یا واجب به یا ممکن به ذاته بعدن به فرماییت بر واجب به و ممکن به ذات بار میکنیم است و در این حال وجود هم نیست دیگه نهایتا نهایتا به اینجا احجابه احجابه احجابه احجابه بزار... احجابه نه نه شما مطنع... که میگید من نجبور میشم بخشم آسی چونی فرمود که من قبول دارم که موهالات حکم واقعی دارم واسه یعنی تناقض را با تضاد متفاوت میدونن واقعا چون یعنی این تفاوت، عدمه. یک تفاوت معنی است یعنی فقط تفاوت نداره. مگه تفاوت تفاوت دارد یا ندارد؟ دارد یا ندارد؟ تفاوتش به چیه؟ به, به هر چی؟ ما کاری به اینا که اون یکیش آدمیه اون دوتاش وجودیه. تفاوت دارد پس این تفاوت را به عنوان یک امر ثبوتی میپذیری بر چی می پذیری، این محمول رو به چه موضوعی میپذیری بر یه موضوعی که هیچ واقعیتی ندارت متن خورد پس من این به صرف اینکه که متعلقه یک حجم واقعی معدوم بود این معنیشی نیست که پس آقا حالا که گفتی حجم واقعی داره، پس همه چیز تو خارج بپذیری خیلی واضحه بردن شد و بالی سوی گرده خیلی واضحه شما یک محالی داری که اصلا موجودیت نده تسلسل اصلا موجودیت نده دو اصلا موجودیت نداره. اما تفاوتی بین این دو محال در متن واقع هست که شما بخواهی نخواهی اون واقعیتش هست اینجوری که ما اینچه برای تسلسل و دور هیچ ما به ما نداریم در مورد ما ماسوالله هم همه تو ماسوالله خودشون هیچ ای واقعی از شیعیت واقعی ندارن موجود مزازی هم اما موجود مزازی بودن اونها منافات ندارد که احکام واقعی برای اونها مترتب بشید پس واضحی بی خودم آقا هی وقت نگذارید استدلال بشه. فارق بین احکام عدم و ممتنع احکام وجود در آیا بحثمانی ما تفاوت واقعی را می‌فهمیم احکام وجود تفاوتی هست کلا قطعاً موضوعی که عوض شد در واقع در واقع در واقع ما اون واقع ولی شما بیاناتون این بود که چون عرفای به قول شما غیر جهله صوفیه میگن که تاثیرات ها غیر جهلی به اصطلاح میگن کثرت ها واقعیت داره بس تناقضگویی گویی کردن واقعا. من میگم جناب تناقض گویی نکردن باید حرف عارف را فهمید من میفهمم داریم وقتی میگیم اونی که اونی که میگه معلوم است اونی که میگه معدوم است خودشه یا میگه و اما این که حکم واقعی دارد اون حرف دیگه یعنی حکم معنا داره حکم واقعی هم. واقعی غیر موجودیته معدوم, معدوم. معدوم. واقعیت معدوم. هر شئی به حسن نفس خودشه حتی ادم را شما میگه نمیگوی ادم نقیزه وجوده ادم نقیزه وجود هست یا نیست اما این حکم واقعی ادمه شما که اعتبار نکرده که واقعا چه شما بخواهی چه نخواهی ادم نقیزه وجوده این حکم واقعی داشتن ای ادمه اما این معنیش این نیست که حالا که چون گفتیم حکم واقعی دارد پس پناهانی ادمت متن خارج پذیرفتیم کجا پذیرفتن؟ <تصفح> آدم با اینکه هیچ بهره از ثبوت ندارد اما واقعا مناغذه وجود است تسلسل با اینکه هیچ متن هیچ در موجودات شکل نگرفته مصداقی از اون در متن واقعی نداریم اما حکم واقعی دارد عارف ها ببینید تو من, من جنبندگی کردم شو... شو... شما تا فهمیدم را شما شما خاص ببینید این بود شما گفتید آره من تناقض دارم میگم چرا یعنی عارف تنقض میگه تو از طرفی درید میگه که اینا هیچ چیزی نیست هم. از طرفی براش میگه که کسرات به صدا احکام واقعی داره نخ بین این دو حرفی تهافتی نیست تناقضنی و در این اینکه که همه ماست الله معدومان، اما معدومیتش منافات نداره با اینکه تو همون فضای عدمی چی داشته باشه چه واقعی داشته سنانس که تعدد آلهه با اینکه هیچ مستاقی واقعی نداره اما حکم واقعیش نیست که فساد آوره خب میخوام فرمایم خب. شما بخواهمیم دیگه من ارزمینه که شما آیا برای احکام ممتنعات و احکام واجب الوجود یعنی اگه موضوع یعنی اگه موضوع موجود باشه یا موجود و معدوم محال باشه محال, باشه. محال و واجب خوب محال و واجب که هست در عالم خارج یعنی چیزی که اصلا بهره ای از وجود نداره و نمی نمیتواند تحقق داشته باشه تونه هیچ گونه اثر داشته باشه از یک طرف که عینش وجوب است و این تأثیره من سوال منه شما برای احکام ممتنع و احکام واجب در این واقعی بودنی که میفرمایید فر میگزارید می اگر بفرمایید که نه فرقی نیست هر این اینا احکام واقعی هستن همونطوری که عدم احکام واقعی داره وجودم احکام واقعی داره این که اصلا میذاریم میریم کلا چرا آقا همینجاست آقا نه آقا همینجا بسته عین همه اگر مجرد. تفاوت مجرد. اگر تفاوت داره اگر تفاوت تفاوت جایی که احکام ممتنع است واقعیت دار بودنش در عالم خارج چی به ما میده؟ آقا باز میگونم آقا ممتلئ الوجود صد تا حکم داره. خب حکم همش... واقعی سجافه. یا فرضی؟ واقعی بس. واقعی. پس حکم واقعی دارد. گوش فرمایید که این ممتلئ پس سوالتون رو بپرسید. سوال, بس. سوال, سوال منقض بشه. من میگم این ممتلئ الوجود واقعی احکامی دارد. میفرمایید احکام واقعی است. بنده هم به یه معنا احکام واقعی می بفرمایید تا فقط بگی برای ممتنع وجود ما داریم آخرش توی عالم خارج چی است؟ این توی عالم خارج, خارج. خارج چیه؟ چی و بوجود بوجود هست؟ هست؟ تو عالم خارج احکام وجود هست. نه دیگه همه اجازه هم ما تفاوت این که شما به واقعی داشته باشید و یک موضوعی که موجود است با یک موضوعی که موجود نیستن همینه. که <تصفيق> شما در حقیقت دو رتبه از واقعیت من رتبه دو متعلق دارید واقعیت هر شیعی به حسب خودشی نه ممتنه چگونه است خب همون دیگه که میگویم یعنی من, من نه واقعیت براشت نه ممتنه چجوری واقعیت واقعیت یعنی حکمش باشه این تو بنده برای یه قاعده ای یه قاعده ای قرار بنین است که بگیم کسرت به عنوان یک امر واقعی یه تأثیری دارد من میخوام ته ماجرا در بیارم خیلی خیلی صحیح و صریح خلاص کنم میخوام ببینم شما آخرتون نظریتون درباره کسرت حزی از تاثیر قائلی یا آخرش بخواد بیدا عالم وحدت محض است همه کسرات مفهومه هم این من میخوام آخرش به رسستم من, من سآل اینه که شما برای ممتنه اگر گفتید حکم واقعی وجود دارد بنده نتیجه میگیرم که شما تمام احکامی که برای کستان میخواید بار کنید از سنخ احکام مرتبط با امتنا و عدم است پس شما از کسانیست که قائلی به وحدت محض قایدید و هیچ گونه کثافتی نموفسید. ما چه خودم اگر دا ادوات میگفتم که این نتیجه‌ای دیگه نتیجه‌ای که خوب پسرا میخواد تصریح کنی چه منده آقا این چه تو وجود این فزیرم در عین حال که تو غیر موجود اره کار واقعیت چیه دیگه غیر وجود آدم غیر خوب مثال ادم بله ادم ها هر چه خیص آدم ها بله بله ادم ها من دارن واقعیت دارن بله حالا اون یعنی تناقض هم نیست یعنی وجود مقابل عدم دیگه بلی. وقتی عدم هم بل. یه است که وجود تناقض هم نیست بر اساس اینم برها نقا با پذیرش تناقض تناقض این که که به نتیجه واحد رسیدیم حالا لازم نرم برحال ما رسیدیم راجوا شما حلوس یک واحد اینو به راه حد موردای خودتون نگفتید من فهمم سری بگید اینا من از ما شاء اصلا اصلا کسرات رو کثرات رو داخل در عدم میدارم یعنی هیچ جایی خب همون خیلی خوب ما به همه ای که برای محالا یه مرتبه دیگری از وجود نکه مرتبه دیگری از وجود نکه دبونید واقعیت چه شما واقعیت میگید ادمه عدم هم یعنی نیست مقابل نه. وجوده یعنی شما قائل به کسرت به هیچ وجه نیستید قائل به وحدت محضهی وجود تمام شد. خب برنامجا هستم ها اقوام دادن میگن دارن میگن که تا حالی فاسد مده آز بذاریم دارم دیلو. هیچ کسرتی ای رو ایشون قائل نیستن استقلالی هم که میخوان بکنن برای این حالی از اون سقیست کسرتی رو گفتن دیگه سقیست نداره گفتن من نوعی ببینیم چه نوعی؟ اگه قسم چهارم داره قسم چارم شداره متاسفانه شما حاضر نیست که در عرض که بحث ورود کنین چون لاحرانی واهمهی تو بحث داری. دا آلیو آلیو نا من اثبات ها دارین بنده اینجا با شما تا 20 جلسه. نه اما ده رو چه بخواه میکن. شما بخواهی بحث کنیم این از ازشی نداره. نداریم می نشینم یک به یک به نه یادم بیکاری میخواهد یادم نه شما مدهاتون روشن کنید. اون یادم تقریر برای وقت شخصی وجود داریم شما اول بگید کلا می کنیم هیچده تا میگید نه ها می روشن کنید. شما آیا برای عدم حکم واقعی قائل حکم واقعی اینو که تو خارج باشا یعنی در واقع اثر خاصی اینا رو روشن کنی شوان همه شوان همه روشن, شوان شوان روشن, شوان روشن, روشن کنی شما چه شو میگو حکم واقعی یعنی تو متن خارج موجود باشد آیا عدم واقعا مناقضه وجود هست یعنی خب محل... خ... یعنی این واقعیش میونه شنو واقعی بودن یعنی معنی واقعی این است که وجود آدم جمع نمیشه نه نه مناقضه است غیر اینه که جمع نمیشه مناقضه اون جمع نشدن نتیجه مناقضه است اوهی ناقصد مانا است. هر ده ها نتیجه می ترد نتیجه می دهد. منی واقعیتی که اینا با همراه چون دست رد به او میزنه با جمع نمیشه ما همون قدم اول را باش ما بحث داریم شما که میگوی آدم ببنید. عدم متارد است واقعا و واقع بودن را به این میدونید که یه چیزی تو خارج موجود باشه واقعیت عدم متارده وجود رو تو تو را به این گرفت که تو متن خارج میگم عدم یعنی اینکه چیانی خب واقعیت داره نه واقعی, بودن واقعی بودنش, شما بودنش به معدوم بودنشه آقا واقعیت ممتنه به ممتنه بودنه شما امتنار از ممتنه دیدید همه یا خوبه واقعی بودن و من معدوم بودنشه آره فرم میگه همه ی ما الله احکام واقعی دارد و واقعی بودنشم به معوننشم خوب خبت نه و واقعی بودنش, بودن بودنش پذیرفت و بودنشم هم, هم. بودنش هم. هم نداره نه نه. هم شما تا اینجا پذیرفید واقعی بودن کسرات در حد نه با... اون چه که شما گفتید. واقعیت همون چه شما گفتیم حالا. هر واقعی بودن بودن عدم رو به دوست که تو خارج معدوم باشم. بله بله. درو... بله, بله, بله. یعنی هیچ دارایی تسیید نباشه. دوباره برای بله معدوم بودن یه چیز قُلنبه درست نکنید. خیلی خوب. ولی واقعی است. بودن یعنی امکان ولی واقعی. پس تو چیز را ایشون واقعیت رو درست کنید. چیز را, را, را پس پذیر یکی اینکه واقعی هیچ قلم تو خارج نشون نمیتون بده با... عارفم هم همینا دیگه. واقعیت میگه میگه شما نه شما با... گفتی واقعی بودن مدعومات به این نیست که یه چیزی قلم به تحویل بده. قلم نیست خیلی خوب نیست اما واقعی است. اما واقعی اما نیست است. خیلی نیست نیست مطلب مطلب ولی واقعی اما واقعی, بودن هم هم هم. واقعی واقعیش، واقعیش بودن است. اما واقعی است. اما است. اما واقعی نیست اما است. اما واقعی است. واقعی است. خیلی خوب همین واقعیتش اینه که وا... محال از آقای استاد دو تا عنوان رو اینو پذیرفتی پس یکی واقعیت واقعیت یکی اینکه یه مطابقی این تو خارج ته و علمن نمیده آقا چرا یه هر کار میذاریم که پت... حرف خالد نمیدارم میذارم نه خب سوپنجو دوباره هم میکنید میکنید لازم کتاب بزنید که که پنج که 50 جنجل صد تا واقعیت و دنیا من جوی نمیرسم حال شما نه نه خب نفس شما از اول گفتید مثل اه اه از باید باید باید باید باید من سالی کتاب. اصلا بیم با تا امروز کردیم. شما دوباره میگه 59 جلسه کتاب. آقا خیر است 59 جلسه. نه. چیزی نداره. بیا توی جلسه ای ما. من اون جلسه 59 او او جلسه نشده. من یه کس تراحت شما بگی. خوب درستی. اون دو دانشجوی چی واقعیت. شما چه گفتیم؟ میزنیم نتیجه. من ازشی. این گتیس ممتاز اضافه هیچ کود تحقیقی ندارد. و نخواهد داشت و هیچکدوم اثریم ندارد. من این واقعی بودن را در مورد عدم ملاقزه وجود است پذیروف و پذیروف که این واقعی بودن به قلام بیگ تحویل بده آقا واقعی ما واقع همین جوری عارف بتونی بگه همه ما سه والله عدم است احکام واقعی هم دارد و چه انتظار نداش خوب منتظر اه انتظار نداش که قلام تحویلش بده خوب یه رقم خدای قرضه اذا بیا به آب کنای دو تا چیزی بگم نه نه از صبر گرم میشی دوستان میگن که اشکال دوم رو ياجا پاسوگلو ببخشید اشکار دو گوزه وازودی که مجال به ذهاب شرطی مقصدی مقصدی محض چگونه بدون هیچ گونه تعیینی وجود خارجی پیدا میکنه خب پس آخر حرفشو ببینیم اون حالات هاجا الان ببینید تا ببینیم که میخوایم وارده تصور کنم چجوری لا به شرطی با حیث هویت لا بشرف که حتی تعین اطلاق هم نخوره میتونه در حقیقت خارجی باشه و دارای تاثیر باشه این تصورا برای ما روشن کنه خود من جنبندگی میکنم فرمايشو تغییر کنم بله اجازه این قصه اون علی اون مسئله دیگه حالا دوستان شنیدن همه طرفین بحث مسئله رو گفتن این بحث, بحث... اجازه این بحث دو... خب این بحث رو میخواید چیز یعنی واردش بشیم یا بحث <تصفيق> نه حالا این هم این هم بشیم بده توضیح بده تمام بشه از که نداره ما حفظی ما مفروضات را بله، بزن اجازه مصادیقشونه. مفروضات نیست؟ یعنی شو مفروضات اصل مدعاه ادلاب چرا؟ حالا اونم مدعای خودشون مدعاه ادلاب همه اینا تو استدلال برای متآلفا سوف میدم. اجازه بدید توی بحثا جلوگیری کنیم. همه استدلال هم همین میفرم. مفاهیم اولی رو نمی‌کنیم. ارکان با ملا صدرا در آخرین تقریر با همه متکلمان و فیلسوفان در همین نکته لابشرطی مقصدی است لابشرط مقصدی حقیقی مشتری که الان عارفان ما با عبارت های صدرا دارن و خود ایشون هم در اینجا فرمودن و دیگران هم گفتن و درست هم گفتن این است که در نهایت ملا صدرا وجود به شرط لای معنا میکنه که میشه وجود و عارف همینو می‌خواد در جزیره لاوشرق مخصلی تعیان بکنه روشن در لاوشرق مخصلی در ساحته وجود چجوری تعیین پیدا بکنه اجازه بفرمایید از ارفعه که حالا در این حال که پاسخ به ایشون داده میشه استدلال هم من ارائه بکنم که اگر وقتمون ته تمشه دو بدن حداقل یه استدلال بحثی رو ببینید یه استدلال خیلی روشنی عرفا اینو اقامه کردن که در این حال که مد‌های مسابطه نفت دیگه با هیچ منیک وجود با قطع نظر از کافه اغیار هر گونه قید و شرطی را شما در نظر بگیری این مناقض عدم بر اساس اصل امتناع تناقض اصل امتناع تناقض اون مطابق هستی را با مطابق نیستی میگه محال اجتماع داشته باشن و در این عدم اجتماع ای که مطرح میشه استحاله بلغیر نیست بلکه چیه؟ به یعنی اینکه هیچ چیئی وجودن و عدمن در تحقق در تحقق مناقضه بین وجود و عدم دخیل نیست چرا برای اینکه اگر هر شرطی هر قیدی در مناقضه وجود بنسبه به عدم و یا مناقضه عدم نسبت به وجود دخالت داشته باشه این معنیش اینه که اگر اون عامل دخیل را جلو نیوردی دخالتش رو نپذیرفتی خود هستی و نیستی اجتماعشون ممکنه چرا برای شما این دست رد به سینه او میزنه دار وابسته وابسطه یک علتی یه شرطی یا وجود قیدیه اوردن این قید این رو درست میکنه اما اگه نایوادی نه نه نا. هستی ترده نمیکنه خودش اون که به او تحمیل کرده که تو باید آدمو را گلش بدهی بره سراغ دیگری پس بنابراین اگه اینطور طور خواستیم بگیم معنیش میشه که اصل امتنای تناقض که بدیهی تنیش شیعه سو منچر بشیم بدیهی تنیم به سراغ گذاره را باید ما منچر بشیم پس بنابراین هیچ دخالتی برای هیچ بیگانه ای در مناغذه ای ادم نسبت به وجود و در مناغذه ای وجود نسبت به ادم نیست و معنیش میشه که پس پنوانین وجود موجود است به در که ترده ادم میکنه ذاتا و در این موجودیت هیچ واسطهی هیچ شرطی هیچ قیدی دخالت نمیکنه کنه معنیشی میشه که وجود موجود است و در فضایی موجود است که هیچ شرط و قیدی برای او محقق نیست این همون میشه حقیقت لاوشتیه وجود که مسابق شد با واجب الوجود وجود نمیتونه غیر واجب الوجود باشه چرا؟ برای که بزاد ترد عدم میکنه بدون هیچ واسطه ای عدم میکنه و وقتی ترد عدم چند او اون معدم نیست حمله ادم دیگه براش شدنی نیست و چون به ذات هست یعنی هیچ بیگانه ای دخیمی هیچ قیدی نمیخواد هیچ شرطی نمیخواد هیچ علتی نمیخواد ولی اگر بخواد این مرشینه که امتناه تناقض امتناه بلغیره نه امتناه ذاتی چون دخالت غیره که اینجا این امتناهش که قده این که باطله یعنی این کار اصل و دیگه امتناه تناقض پس که ترد ادم می کند موجود است نیمیتونه معدوم باشه وقتی اتونست معدوم باشه موجود باشه ولی افتقای نقیزن پیش میاد. و بدرید اینکه که هر شرط و قیدی در اینجا نبود و همه شرط ها و قید ها منتفی شد پس وجود لا به شرط از جمیع اغیاره که داره پرد ادم میکنه و می گید ما موجودم چیزی که موجودده و تو موجودیتش هیچ شرط غی ننداره که لااض موجودی. و رااضول موجوددی تکسوریری ننداره. نه تکسور توبای داره که تو ف مشیاعی ها بدطره. نه تکسور چی داره مثللاقی داره که تو بعض فکس سفام فاس های خلاسف باستان مطرح میکردن. نه تکسوری بر مرتع داره که تو ف به صد را هر نوع تکسری بخواد تو وجود مطرح باشه چون وجود مسابق وجود ذاتی شد واجب به ذاته تعدد در وجود یعنی تعدده در واجب و وجود پس بنابراین هیچ کسرتی تو وجود پذیرفته نیست. و بنابراین وجود واحد شخصیه بدون هر کسرتی ولی در این حال این حقیقتی که هیچ تکسری ندارد تجلیات. در فضای معدومات برای او هست و احکام واقعی هم برای او معدومات هست ولی احکام واقعی داشتن به معنی هی نیست که شما یه واقعیتی موجودی مثل مثلا خود تا وقتی که اون وجودش نمیده تحویل ما بده چرا یک مثال برای شما زدم؟ من مثالش برای زدم که شما دور را واقعا ایره تسلسل میدونی ولی برای این واقع بودن این حج یه چیزی تو خارج پیدانی میکنی که اسمش تسلسل باشه و اسمش مغایرت این با دور باشه همه اینا تو فضای مردمه است اما احکام واقعی براش تو رتبه این استدلال اول تا ببینیم این استدلال اول بر ازو اینکه ما ای حقیقت این بله عبر. ما ایست ما هر نو تکثری بدین اینکه خود وجود ثابت شد یا مسابق با واجب واجب هست است و تو واجب الوجود هیچ تکثری نیست در ادله توحید ذاتی ادله توحید ذاتی حساب کن نگید یک واجب الوجود بیشتر وجود نداره نه تعداد تبعیونی داره تو که تو فلسفه مشائی هست نه تعدد مرتبه‌ای داره بگو دو مرتبه سه مرتبه از وجودات اینا همه واجب باشن اینا را در واقع تو ادله توحید دیگه نفسش میخوان و بیانشه اونجا باید بخونن حالا ما اثبات اون ادله توحید نمیخارن اونا یه امر مفروض میذارن فقط این مقدمه رو رسوندیم به این که وجود وجود الله شرطی حالا این زای شما چه وجود الله شرطی ما وجوده ببینید این تصوری که تو فلسفه مشاییش یک گرفته و بعد تو فلسفه های دیگر هم به نحوی پذیرفته شده جر چه فیلسوفان در خلذهای این بحثا ازش عقب نشینی کردند این که باید در واقع اشیم مالم یا تشخصم یوجد یه قاعده یه که هیچ دلیلی هم برای شدیک نشده و حرف درستی هم نید. ولی ولذا شما خود آخون که میاد اثبات واجبال وزود میکنه اثبات رو حقیقت لا به شرطی واجب میکنه حقیقت لا به شرطی وزود رو واجب میدونه با اینکه که اون تشخص به این مناسی نداره خود آخون کلی عقلی را یعنی موجود به عقلی که میگم نه اون اصطلاح مثلا منطقی ده. یعنی کلی که تو مثلا ارباب عرباب انواع تحقق پیدا میکنه او رو معتقده با اینکه اون معنا از فیل چه تشخص به معانی که علا شما تو این وجودات نازل احیان هم میبینی اصلا نداره چون همونه که جامعه همه افراد و بر همه افراد سید میکنه چون وقت بگویی زید انسان است عمر انسان است اون حقیقت کلی لا را داری بر اینها هم میکنی و او وجودش مقدم بر فرده شما اگه بنا شد بگویی زید انسانه برای اینکه این فرد انسان باشد، باید طبیعت حضور داشته باشه در او چرا این دیواره میگویید فرد انسان چون طبیعتی که لا به تو اون رو حضور نداره پس اول باید اون طبیعت لابشرتی موجود باشه تا این در پرتبه او بتونه فرد از انسان بشه ولی اگه اون را نداشته باشید تو رتبه متأخر بخوایی تحقق بدانی براش این زید ملاک برای فرد بودن نسبت به انسان نخواهد داشت. پس اون هم که چی تو میشه دیگه حقیقت لاو شرطی متحقق باشه اون هم به قاطل یه تواهمه غلطیه توهم این بایده که اشیعی معالمیت شخص نمیمونجا این حقیق درستی باید نسیم نهد نکنیم بفرم از ببینید من اول توضیح بدم که دوستان و جاییان باشم ما کجای بحث هستیم برای اثبات وحدت شخصی وجود آریف باید سه پله و سه مرحله رو دیکن اول ثابت کنه که وجود مشترک معنایی است مشترک معنوی معنوی فلسفی ادبی که اشتباه شده حتی در کتاب محاصلین ما تصور کردن کسانی که میگن وجود مشترک لفظی است مشترک لفظی علوم ادبیات رو میگن پس گفتنا وقتی ما میگیم انسان موجود بغر موجوده است یعنی دوتا معنا اراده میکنیم میگیم نه بحث در باب اشتراک معنوی ادبی نیست اشتراک معنوی خارجی است یعنی اول فلسفه اصالت وجودی چه عارف وحدت مطلقه باید اثبات بکنه که وجود با معناش در خارج و در مسادیق واقعیت عینی دارد و مشترک از ما به ازای مفهوم وجود در تمام کثرات بیایید خب این نکته ادله اثبات وجود رو میخواد ادله اشتراک معنوی وجودی در کتب فلاسفه اومده تمامی ادله چطور داره تمام ادله اثبات اشتراک معنوی وجود یا مصادره وخطوب است یا درش مقابطه هم در اولی و ثانوی است و امثال او بحث میکنه الان شما دارید مفروض میگیری که مفهوم وجود در خارج ما به ازای حقیقی دارد این شماست فرض شماست. استدلالم نمی‌کنید با یه اصالت وجودیام مطلبی بحث کنید بری جلو. بنده چون اصالت وجود رو قبول ندارم به این معنا با شما باید بحث کنم. نشان بدم که اصالت وجود هیچ برهانی نداره و تمام ها متخوره. این می‌ذارم که الان چون فعلا بحث ما نیست یه قدم با شما میام جلو. می‌پذیرم که وجود اشتراک معنوی دارد در مساجیدش. گام دوم ادله وحبت شخصی وجود متصدی این است که نشان بده این مفهومی که ما از وجود داریم و در مقابل عدم هست این اولا یه اطلاق دارد خب اول اطلاق و رو ثابت میکنی میگه مثل هر مفهومی دیگه همتی که من میتونم انسان رو به شرط شیع ببینم لاب شرط ببینم میتوانم وجود رو هم لاب شرط ببینم تا اینجا هم همراه میشه بحثی داریم در اینجا از نظر بحث فلسفه تحلیلی می‌زارم کلا می‌پذیریم که می‌توان وجود رو به صورت لاابشرد در نظر گرفت مفهوما و مقدمه اول استاد هم که در مقام مفهوم وجود بین وجود و عدم مناقضه است مناقضه هم ذاتیه نیاز به توضیح نداره مناقضه میان مفهوم وجود و عدم یعنی مفهوم وجود ما به ازایی دارد با ما به ازایی توجه داریم که اصل تناقص نازره به واقع اما فعلا ما از دریچه مفهوم وجود داریم مناقضه رو حکم کنیم ادله وحدت شخصی وجود در اینجا باید اثبات بکنن که اون چرا که ما در ذهن به عنوان وجود لا به شرط مقسمی داریم ای در آلم خارج واقعیت داریم واقعیتدار دار بودنش رو اثبات کنه بله این مفهوم لاب وجود لاب در خارج مصادیقی دارد که وجودهای به شرط شیعه این همه قبول دارن هم وزدانیست هم معقول هم مورد اتفاقه ایک بحثی نیست این که من از وجود یک مفهوم لاب دارم و این مفهوم لاب در خارج هزاران مصداق داره این خیلی روشنه ادعای وحدت شخصی وجود این هست که نه آقا. اون چیزی در خارج وجود دارد وجودات و, و موجودات نیستن یه است که لا به شرط این با کدام برهان اثبات میشه جناب استاد اولین برهانی رو که در همین در قباید آوردن و تقریبا یه برهان کنار برهان افرا آقا ترگید جز مهمترین برای اصلا که عارفان هست عارفان نظری هست این الان نهامی کردن خب حالا من اجاره نمیدونم که اساتید معاصر اینو بحث کردن نشوند در نشون نشوند دیگه اینجا بحث پیاس بس جو بحث کنیم که از خودم حرف از خودم میگم از خودم میگم خودم از اشکالات ایشون هم بحث میکنم ببینید بله من الان در مقدمات اشکال میکنم که اصلا اصالت با وجود نیست تمام ادعای اصالت وجود مبتری برای یه مصادر مطلوبه به خلطه این وقت و مصرابه او تا اونجا میرم اما فعلا در همینجا شما اون چیزی که در مقدمه اول ثابت کردید مناقضه میان وجود لاب با عدمه این مهند کلام نیست یعنی هر جا وجودی باشد این لاب بودن هم لاب مقصنی نیست لزومن هر وجودی به هر حیثیتی وجود تحقیق داشته باشد به همون حیثیت ادم با او مناقض هست نقیز و شیء این رفعه اما شما در قدم بعد مفروض میگیرید که این وجود لاوشت که من فرض کردم تو خارجم هست ظرف خارج رو وجود لاوشت پر کرده اینو مفروض میگیرید که باید اثبات بکنید که اصلی برهان برای یه آماده بود که بگه وجود لاوشت مفهومی ما مستاق خارجی داره یعنی اون که در خارج وجود دارد حقیقتاً وجود لاب شرط مقصمی است. این اثبات نمی کنید به لوازه اشترکه می کنید. می حالا که در خارج وجود لاب شرط حتما حتماً هست. پس بیان بررسی کنیم که آیا این وجود مثلاً فرق تعدد یا نه؟ وجود می یا نه؟ من میگم اصل برهان برای اثبات این نکته بود. خط مفهوم نستاقه. مناقضت میان مفهوم وجود و م هیچ ارتباطی با خارج تا اینجا که همه مشترکن هم. مشاییان و اصحاب تشریف و دیگران قبول دارن که مناقضت بین وجود عدم هست تو همه رتبش همه دعوای کسرت وجود وحدت وجود وحدت تشکیلی وجود این است که اثبات کنیم اون چیزی که ظرف خارج و کرده مصداق مفهوم وجود لا به شرط مقصمیست مصداق مفهوم وجود به شرط قسمی است و غیره هیچ دلیگه قامل نشد شما مسلم انگاشتید که این در خارج این واقعیت خارجی است شروع که این لازم بار میکنید هنوز نوباره لازمه ندسته شما ثابت بکنید که این محفوم لا واقعیت خارجی رو به کدام برهان این برهان اصلا برهان خلط خط به مفهوم محفوم مصداقه. اسوال اشکال پس همین الان که این اشکالی دیگه معلوم شد بله عرض که ببینید ایشون یه ادعا میکنه چه باعثه که رفتی به حرف ما نده این که ادعا میکنم که اثبات وحدت شخصی وجود بین اینکه اشتراک معنوی وجود رو ثابت کنه چه استدلالش بوده ولی نه فقط ادعا کردیم اینا پس نتیجه ایم. کجا استدلال بر این کردم این اولا و ثانیاً بر فرض وجود مشترک معنوی باشه ما که اول روشن کردیم ممکن وجود جو اسم خودت بذاری وجود خب قضیه اشتراک لفظی میشه آقای وجود بیا خب ما که این بحث ما این نیست که ما از اون اول درسه اعلام کردیم که وجودی که ما اینجا میگیم یعنی همونی که مناقض عدم است اونی که نقیض عدمه ما اون رو داریم سوخاط میکنیم و گفت حالا باز ایشون میگه که ما پایبر وجود است. ما اینا متفاهم اون اول زلزله گفتیم نه آقا مطلقا قصرات وجود نیست وجود هستی م... که اینجا میگم هستیه به معنای مقابل عدم است یعنی معنا الواقعیا حالا مطابق به ذات طبق فلسفه صدرایی اون وجوده در فلسفه‌های دیگر دیگران ها. چیز دیگری ما هیچ توازنی ندام که اون مصداق بذاتش از چه سنخه الوجودی است که صدرایی میگه یا مثلا ماهیاتی که شیخ میگه. ما کار این بحث نداریم مثلا ما میگم اونی که نقیز ادمه اونو داریم صحبت میکنیم اون قطعا یه شیعیه سرایی که لا شیعی باشه لا شیعی با ادم چه مناغذه نداره چه ما وجود ادم بینشون چیه؟ مناغذه هست بایی که وجود وجود معنای واقعیت معنای لا شیعی باشه که خب لا شیعی که با لا شیعی در واقعه هم دیگر ها تحمل میکنن این, این شیعه و اون لا شیع این چه حالا مصداق این شیعه همه الوجودی باشه که صدرها میگه یعنی میگه اون مهم نیست برای ما ما حال تحمل میگیم ولی میگم مهم نیست اصلا تو بحث ما تو استدلال ما این نکته ای دو نکته ای سه ما میگدی شما اثبات نشهده که این را موجود میدانیم پس وقت گفتیم گفتیم آقا این الوجودی که من از به حکم امتناع ذاتی تناقض مصداق این طرف نقیز که وجوده با همون تفصیل که کردیم مطارده با مصداق اون طرف نقیز اون طرف, اون طرف چیه؟ معدومیت و لا شیعی بودن و پوچ بودن اون چیزی که مطابق شیعیته با اون چه پوچیه تطارد ذاتی داره این دعوالیسته این بداهته امتناه تناقض بدیهیه بدیهیه اولیهشی ازش مخونه قبول نکنه هیچ دیگر نیمتونه قبول نکنه خیلی خوب پس بنابراین وجود با قطع نظر از همه اغیار خودش خودش دفع ادم میکنه وقتی دفع ادم کرد یعنی معدوم نیست وقتی معدوم نبود باید موجود باشه و اتفاق نقیض پیش میاد اگه نه معدوم باشه نه موجود باشه چه اتفاق نقیض اینه پس نگو شما اینو مفروض گرفتیم. آخه ما موجود گرفتیم دلیلش هم اینه که اتفاق نقیض پیش میاد اگه از ادم کرد معدوم نیست وا چون معدوم نیست بعد موجود باشه چرا برای اینکه اگر معدوم بودن را پذیرفتی یا یعنی معدوم بودن را رد کردی گفتی معدوم نیست بعدم گفتیم موضوع هم نید؟ خب میاد اتفای نقیزنه دیگه اتفای نقیزنه بزرورم محاله پس بنابراین اون حقیقتی که مناقض ادمت در فضایی که هیچ شرط قیدی براش مناقض نیمید شد ولی اگه شرط باشد اگه قید باشد یعنی اینکه این, این مناقض را به اون وابسته هم. و یعنی اینکه تناقض محال ذاتی نید پس در فضای کاملا لا به شرطی دفع ادم میکنه و دفع ادم وقتی شد یعنی مهدوم نیست و وقتی مهدوم نیست باید موجود باشه بلا معدوم نبود موجود هم که نبود چه پس موجود است قطعا چی موجود است؟ اون حقیقتی که هیچ شرطی نداره، هیچ قیدی نداره. این ندا موجود است بدون هیچ شرط و قیدی موجودیتش ثابت شد و چون تو فضای بی قیدی و بی شرطی موجود است این واضبال چیه؟ چرا؟ یعنی موجودی که به هیچ شرط قیدی در موجودیتش وابسته مید خب شما همین را ثابت کردی نگویین این وجود موجوده به دلیل که عدم را ترد شد. و چون عدم نداشت پس موجوده و اگه موجود هم نباشید اتفاق نقیزن بس موجود ولی در چه فضایی موجود است در فضایی که هیچ شرطی در کنار او ملاحظه نشود هیچ قیدی در کنار او ملاحظه نشود پس موجودی که هیچ شرط و قیدی ندارد این چه این قطعا بدانیم که هم موجود است و هم شرط و قیدی ندارد حتی واجب موجوده و ایجاد که وقت ادله چی نفیه تعدد واجب در چنار این ها زنی می که اون حالا در جای خودش چیزی ثابته که واجب الوجود هیچ تعددی نداره نه تعدده به حسب چی اینکه دو واقعیت با دو حقیقت متفابط واجبی داشته باشی به اینکه یک معنای واحد باشته باشیم به نامی واجب الوجود باشیم مسادیق متعدد داشته باشیم اینم باطله به این که یک حقیقت باشد، یک واقعیت باشد، ولی زومراتب باشه چند از مرتبه های اون و... وجود واحد اینا همه واجب باشن باقیشون هم امکانی باشن اینم باطله چون ادله اثبات توحید ذاتی همه آنها از چه تناقض را چی؟ این تعدده واجب را باطل میکنه پس بنابراین وجود لا به هیچی متحقق واجبه و بدون هر نوع کسرتی بسنم ازو من به نظرم اینجا حالا دو سه تا نفتی من راست کنم وقتی اولین است که دسارت میکنم یه نقدار خلط نیان محفوظ نابشت در قضیه استمال ریز این به نابشت به معنای وجود نابشت مقسمی خارجی داره میشه اینجا یه گفت منطقی بوجود داره زندنی رو بازش کنم وقتی شما میهید در اصل تناقض وجود بدون هیچ قید شرطی با عدم مناقضه اول توجه داشته بشه بدون قید شرط یعنی ذاتی؟ یعنی چیز دیگری لازم نداره این ذاتی بودن و بدون قید شرط شامل تناقض این وجود با نقیزش میشه شامل تناقض واجب الوجود با نقیزش میشه شامل تناقض وجود لا به مقسمی با نقیزش هم میشه این که شما میفرماید در باقی است امتناه اجتماع نقیزه این میفرمایید این تعبیر بدون قید و شن معناش اینه یعنی برای تناقض ما حیثیت تعلیلی نمیخواد برای امتناه تناقض حیثیت تعلیلی نمیخواد در تناقض خود متناقضه این با همدیگه تاره دن. ای بدون قید و شرط وقتی به اون چیزی که شما میگید در خارج شیء بدون قید و شرط نداره این بدون قید و شرط شامل بنده میگم این وجود هست یا نیست میخواد بله میگم تاریدش نقیزشه بدون هیچ گونه قید و شرطی ها این بدون قید و شرط قید است تناقض یعنی اصل تناقض ممتنع است و برای انطلاخش هیچ دلیل دیگری نمیخواد شما بنافاصله از این لا بدون قید شرطه میگید آره پس بنابراین هر جا ما اصل داریم که بین شی و لا شی هست او شیه حتما بدون قید شرطه یعنی به شرط لای مقصمیه یا لا به شرط مقصمیه تو هم این که شما میفرمایید بدون قید شرط شامل این میشه و نقیزش من میگم این وجود نقیزش اونیست که رفع این است بدون هیچ قید شرطیه شبه فرموید پس به این وجود در خارج هیچ شرطا قیدی نداره پس شد بشر. این نقطه اول پس شما اون چیزی که در مقدمه اول دارید میفرمایید اینه به عبارت دیگه لا قید و شرطش که کنا میخواهید بفرمایید در اصل تناقض ما نیازمند به هیچ دلیل دیگری نداریم متناقضه این خودشون با هم دیگه میخواد طرف وجودش وجود لا بشر باشه وجود به شرط شیع باشه با حضاف تغییر بازم خودش با نقیزش متناقضه این مقدمه اول از تو مقدمه اول فیلن وجود لابشتی در نیاوردیم مقدمه دوم میفرمایی که ما اصلا برای مهم نیست واقعیت خارجی واقعیت خارجی اسم شیعه این خوب بسیار خوب اسم شیعه حالا من اگر شد عرض میکنم نه باید وجود باشه و بعد ثابت میکنم که اگر این وجود رو شما نتونید اشتراکی معنیش ثابت کنید تمام نیست برهان حالا شما تو اینجا می فهموندن با شما میام خیلی خوب کاروان خودتون سخته هم میکنید شما می واقعیت نقیز لاواقعیت هست چه نقیز لاشی است احسان تناقضش هم ذاتیه دلیل دیگری نمیخواد خبانه اختلاف اینه اختراف بینید فیوسفان در چیه در این است که مس این واقعیت باشه ای چی از کجا شما گرفت روی شی پرید به شی بدون هیچ قید و تا اینجا در مقدمه دوم فهمیدیم هر چیزی که در واقع شما فرمودید برای من مهم نیست اون واقعیت میخواد ماهیت باشه میخواد وجود باشه میخواد فرض بید اکوار متکلمان باشه جوهر نمیدونم دوران باشه مهم نیست واقعیت واقعیت واقعیت نقیز دارد نقیزش هم عدم میشه بسیار خوب شما چجون از این واقعیت رسیدید به یک واقعیت لا به شرط و ادعا کردید اون چیزی که در خارج وجود دارد و ما با انوان کلی واقعیت و شی ازش یاد میکنیم همون شیعیت صرفه است. صرف و در بیان دومتون بر این رو تکبین کنید از یه جای دیگری استفاده می‌کردید. باهم می‌گوییم که تکوور فرد بدون تکوور طبیعت ممکن است. پس ببینید دلیل اول چیزی رو ثابت نکرد. این که فرمودید یه دلیل دومیه. در کلمات عرفا هم بین این دو دلیل تضاد شد. دلیل دومینه که به دلیل متقویمگنیته. که ما چون در هر شیء مبعید نگاه می‌کنیم، فرد نگاه می‌کنیم. همیشه فرق چیز عبارت است از طبیعت اون و قیودش و خصوصیاتش مثال میزنید امسان تا طبیعتش هست این طبیعت قید میخوره میشه زید خب مشخص هست که در مقام زین هم طبیعت مقدر بر افراده بر قیوده چون هر فردی در مقام متکی متکیز به مفهوم طبیعت و کلی پس توی خارج هم اگر اعتقاد پیدا کردیم اون هست باید قبلا طبیعتش موجود بشه بر. وجود لا به شرطیش پیدا کنه تا وجود فردش تحقیق پیدا کنه این باز دلیل نداره این دوباره همون خلط میانه مفهوم و است که از سایتولا جوادی و دیگران خرمودن از سایتولا مستاقی در دستشون تقریبا دو جلسون این برست که ما در شرح یه همون خلقه بین مفهوم های طبیعت در ذهن مقدم هست بر فرد. یعنی چی؟ یعنی ما اندر تحلیل وقتی یه فرد رو می‌بینیم میخوان تحلیل کنیم چون ذهن ما اون هم ذهن معمولا آغشده این بحثای فلسفی این ولا ذهن آمیانه این کار نمیکنه. ذهن آباشتوی مسائل منتقید فلسفی منتقید عرصوی اول یه سر کلی درست میکنه میگه بله کلی آمده با یه سر گیودی شده این خودکار پس باید اول طبیعت موجود باشد خارج رو دارید میفرمایی هنوز شما تو خارج ثابت نکردید تو خارج چیه او خارجه ای شیعه ماهیت غیر ماهیت اولا اگر اینا متفاوت باشه کاملا نتیجه متفاوته. طبیعت در ماهیت که مقدم بر خصوصیاته دیر از طبیعت وجود است که مقدم بر خصوصیات و غول میشه یا اولا شما حتما اینجا وجود ثابت بکنین تا بتونی تو وحدت شخصی بگیرید ولا بند گفته با خارج ماهیت است ماهیت و تعیاتشه شما میا یه طبیعت ماهیت وجود داره میگم طبیعت ماهیت هم ماهیت است طبیعت ماهیت, هم ماهیت هست و ماهیت است و متکثر است و قید داره. این نکته اول عزیزم. سوال در این بود که شما فرمودید یه چیزی من در ذهن دارن به نام شیء مقید. در مقام تحلیل ذهنی اول استرافت شی میاد به ذهنن بعد میگن شیء ها میپذیرم با شما درسته. فرزن ما نیستیم که فاورت گونه در عالم خارج هم اول یه طبیعتی به نام طبیعت وجود یا طبیعت شی تعلق داره بعد تو طبیعتشه آمایه در یه رتبه دیگری قید خورده شده این اشیا یا اول رو کلامی اصلا دلیل باید ثابت کردن رو ارتباط میان مطلق و مقاید ذهنی ربطی و خارجی نداره برهان وجود شناختی وحدت شخصی ای وجود اینجا باید مداخله کنه باید بگو، به من بگوید اون چیزی که در خارج وجود دارد حقیقتا مستاق وجود لا به شرط محصمی شما از یک مفهوم برید پول می‌زنید به خارج پس به را برین این بیان دوم شما که مکمله استدلال اول بود که دلیل دوم هست اینم منگزه اصلا تمام نیست حالا میخواد دلیل سوم بیاید تو آنیدان آنیدان. هم نقدش کنیم نه نه اجازه بدید ما باید وقتمون که این معنای لا شخص را شما متفاوض کردید نه آقا طبیعت. هر طریعتی باش شما یه وقت مقید میکنی به داشتن این که شرطی کنارش باشن یا علتی ده کنارش باشن اگر مقید کردیم میشهد محایت مقیده طبیعت مقیده مشروطه یه وقت نه هم شرط و حتی بیشرطی رو هم شرط نمیدانی دانیم نمی دانی. این مطلق اطلاق مدسنی در فضای امتناع تناقض داختی میگن به این کینه است به این خاطره که شما بله بله به این خاطره یعنی که... تناقض در اینجا نیست به این خاطره حالا تا... دارم میگم اون هم پس چرا به این خاطره که اگر هر چیزی که اسمش بشه همون غیبی که شما میشه شیء میشه... ماهیت مو قید اینا هر چیزی که قید باشه که بشه مزمن وجود مو قید به اون قید یا هر چیزی که شرط باشد علت باشد به هر تعبیل اگر هر کدوم اینها در مناقضه به اصطلاح وجود به نسبه به عدم دخالت داشته باشن مجردی که اون طبیعت بدون این این قیده و شرط را داشته باشه حسکاری نمیکنه متارده نداره خب اگر وجود به حسب طبیعتش حساب خودش متارده نداشته باشه یعنی میتونه یه حقیقتی باشه که با صرف اون قیده میتونه معدوم باشه یعنی شما پس اون نفس طبیعت را امکان عدم براش قایلی خب اگر امکان عدم براش قایل شدی یعنی این که وقتی هم میگوی خدا واجب الوجود است این وجود مستاقض همون طبیعت که عدم را به خودش راه میده واجب واجب وجود هستی هم یعنی وجود را دارد و ضرورتن دارد و تو این داشتن این وجود هیچ به دیگری وابسته نیست خب همه اینا درست وجود داره در داشترش هم چی؟ حتمی داره و داشترش هم به غیر وابسته نیست اما چیه داره؟ یک طبیعتی داره که خودش میتونه معدوم باشه. یعنی اگه این را نخذ پذیری اصلا واضح براشونه نتونه اثبات کنی چرا برای که این مثل که در واقع بیاد بگوید که خدای یک وجود به ضرورتی دارد که تو خودمون وجود معدوم میتواند باشه. چون اون طبیعت را شما راه داده بهش آدم. آدم وقتی تو طبیعت راه پیدا کرد شما اگه هزار تا ضرورت هم بده برای اینکه فلانی اینا دارد داری یک معنای ممکن ادم را برای این قاعد میشی و خدایی که بتوند عدم به طبیعتش به موضوعیتش راه بیدا کنه این خداست واقعا پس این نیست نفس طبیعت وجود اگر هر مسیری براش باز بشه چه امکان ادم داشته باشه این معنیش خب همین طبیعت رو که ما تو واجب میپذیریم حالا خود این طبیعت واضب حتما اون رو دارد خیلی خب داشته باشه اما چیه داره یه طبیعتی رو دارد که خود این طبیعت رو میگه آقا من معدوم میتونم باشم یعنی خدا شما میتونی معدوم باشه پس این چنینی نفس طبیعت وجود باید متارده یه به ذات داشته باشه بدون هیچ شرط قیدی نسبت به عدم شرایط که هر کهایی دی به خود راه نداشته باشه به خاطر خالات داشته باشه هر شرطی به خاطر خالات داشته باشه این منظور که خود طبیعت اکتذای معدوم بودن میتونه داشته باشه میتونه معدوم باشه وقتی معدوم شد میتونه معدوم باشه چون وقتی این را تو وجود واجب بخوای ببریش خوانی تا سردمی تا بیاد تو خیالگری دیگه یعنی واجب میتواند معدوم باشه یعنی شما نمیتونی فرست خدا رو به خدای واجب واجد تو خب خدا پیش خدا, ازاد... خدا اینکه این این این این این خلط مفهوم به بشه این میگه اما اینطور میگن خلط مفهوم بسط یا اصطلاحی در آغازی اون بدون اینکه استدلال برش بیاره آقا کرد این طبیعت وجود مذهب ملاحظه با عربش میگن آخه خب اینم وجود اینم ملاحظه عدله آقای سبحانی که مصادره مطلوب است این چه این وجود باشد و بعد مناقز ادم باشد این مورد نزای بنده و با باچه ندونی حالا فعل این هست مننا وجود شخصی خاصی نه که این هم مناقظه عدم است حاضر بی وجود بیا نظام من شما کنید. ما به استناد قاعده بدیهی داری میگیم. قاعده بدیهی میگه وجود بذات با عدم مناقضه. اصل امطلا وجود ها میگه. وجود ها میگه. وجود هر چیز ثابت شو. جا وجود, وجود باشه. هرج وجود باشه. شرط خب ما اونا شرح اگر طبیعت اگر طبیعت اگر طبیعت لا به شرطی او امکان ادم داشته باشه یعنی نیاز داشته باشه که شما یه قید بهش تحمید کن نیاز به خب قید نداره که خب اگر قید نداره اگر شرط نداره آقا ببینیم هیچه جایی که نبوده ما همون دارم صحبت شما اون اصل طبیعت را میگی وقتی میتونه موجود باشد که یه شرکی یا قیدی در کنارش می مثلا فرض بیاد مثلا فرض بیاد یه شما خیلی خوب هم ندیم شما ثابت وقتی, وقتی شما میگم طبیعت مقصدی وجود داره شما صورت متجردی بزنید وقتی وقت شما میگم طبیعت این در واقع کابه فرد یعنی چه؟ یعنی این مناقضه را وقتی دارد که اون فردیت به این زمینه بشه. درست چرا شما برای که این وقتی موجود شد و موجودیتش در جراوه اینه که این خصوصیت خصوصیتی که مثلا وجود زید باشه بهش زمینه شده باشه پس شما داریم بگوی اون طبیعت طبیعت وجود حتی زید وقتی مناقضه عدم است اون خصوصیت زید در چنارش باشه اما خود طبیعت که این خصوصیت نداره نه مناقضه نداره مناقضه نداره پس ما اصل طبیعت را ممکنال عدم میدانی وقتی اصل طبیعت ممکنال عدم شد خب همین طبیعت را ما تو اذهان داریم, داریم یک طبیعت امکانی هزار تا ضرورت هم داشته باشه ضرورت داره که اون طبیعت امکانی داشته باشه اما خودشی حقیقتا چیه قابل تحقق قابل عدم است پس من امر واجب نیست پس نمیشه اون طبیعت این ملاحظش رو با عدم در ترتیبی قیدی یا یک خصوصیتی یا شرطی داشته باشه و حتی واجب رو هم داریم تونیم با ملاحظه بپذاریم این معنی و اما مسئله تقدم طبیعت بر شما میگه در ذهنه شما چه میگه اول فرد باید باشه در خارج تا طبیعت در پرتبه اون موجود باشه نه در کزا میگویی در خارج بگویی دیگه درسته؟ بگوی اول تو خارج فرد یک طبیعت بیاد تا بعد طبیعت به استناده به اون فرد موجود باشه ما همین داریم صحبت میکنم شما چه بخواید گوی او فرده و زودتر از طبیعت موجود شده اونا با اینکه هنوز طبیعت توش حضور نداره تو اون طبیعت میخواد به این موجود بشه در رتبه مقدم خود فرد مقدم که شد یعنی تو اون فضای فرد هنوز طبیعت حضور نداره وقتی حضور نداشت شما او را فرد اون طبیعت میدونی با اینکه ملاک فرد نداره شما چرا دیوار را دیوار خارجی را فرد طبیعت نبیدونی طبیعت انسانی نبیدونی تو این طبیعت توش حضور نداره پس باید حضور داشته باشه. تا بشه فرد شما که نگویی فرد مقدم است. اول فرد بودنش باید ثابت بشه و هیچ یاری برای فردیت نیست مگر این چون طبیعت حضور داشته باشه. داشته. پس تو متن خارج باید طبیعت مقدمه بر فرد تحقق داشته باشه. نه اول فرد فردی شکل می دور میشه چون فردیت فرد به حضور اون طبیعت سوش حضور او را هم وصلت به فرد میدونید دونیم دور و ماحال و نام بسیار برو یه جوری فقط فهمیدی که چی تا رو می شو کنیم من دو کردم که طبیعت به شرطی مناقضه با عدم است که معین بشود من چه چیزی گفتم نمار هر شب شده من گفتم وجود در هر جایی که باشد میخواد با حدود باشد میخواد نابشرد باشد با نغیز خودش با تردش مناقضه است من سبب نکردم که بود حتما طبیعت مقید به قیود بشود تا تناقر ساسل بشه بلکه قاعده اقلی عامه قاعده اقلی میگوید هر جا که وجود باشد با عدم مناقض است یکی از مسادیقش وجود به شردشه میشه ممکن ممکنه یکیش وجود به شرد لاس میشه واجب یکی از مصادره است مصادره است مصادره است وجودی نداری وقت آخر به شما وقت آخر شما نداری وقت آخر دیگه نداری وقت آخر دیگه نداری وقت آخر دیگه نداری وقت آخر دیگه نداری وقت آخر دیگه نداری با هر قید و هر اطلاق مناقضش تردش با او قابل جمع نسب میخواد اون مستاقش وجود ممکن باشه میخواد مستاقش وجود واجب باشه میخواد مستاقش وجود لاب شرد محصمی باشه ایمان منحسن نمی کنم. شما ظاهران ادعا می کنید که زمانی مناقضه بین وجود آدم صورت می که حتما وجود لاب شرد باشه هیچ قیدی نداشته باشه دیبورسین چرا ما رو ارجاع میده به شرایط اصل تناقض میگه چون در اصل تناقض متارده بین وجود و عدم بدون هیچ قید شرطی است شرط دیگر نمیخواد حیثیت تغییری و تعلیلی نمیخواد پس بنابراین امتناع تناقض مخصوص وجود لاوشرطه میگه رفتی هستم با الله یعنی مشترک لفظی است در اونجایی که تو اصل تناقض میگیم متارده بین وجود ادم هست و هیچ شرطی نمیخواهد خواهد یعنی شرطی غیر از وجود و ادم نمیخواد نفس وجود و نفس ادم با هم دیگه متارده دارن تناقضش ذاتیه از این تناقض ذاتی استفاده نمیشه که حتما وجود باید در اینجا هیچ شرطی نمیشه هیچ رفتی داره بنده اینجوری عرض میکنم من نگفتم وجود باید این باشه من اتفاقاً ام گرفتم گفتم اگر در خارج وجود این باشد بنابر اصل تناقض بدون هیچ قید و شرطی با عدمش متارده دارد اگر وجود واجب باشد وجود واجب با عدمش بدون هیچ قید و شرطی متارده دارد و اگر هم وجود لاو شرط مقسمی باشد باز بدون هیچ قید و شرطی با عدمش متارده دارد این بدون قید و شرط وقتی به لا شرط مقصدی شما در وجود درست میکنید نیست شما از این بدون قید و شرطی در اصل تناقضه میبرید تو خارج شما دارید منحصر می‌کنید میگید اصل تناقض نیست الا اینکه وجود لا بشرط از هر چیزی باشه من میگم نه اصل تناقض من همه موارد بر شماست که ادعا می‌کنید خارج وجود لا بشرط است این است که ثابت کنید خارج رو لا بشرط طور کرده این دلیل نداره از این دلیلی نمی‌تونی برسید تمام <تصفيق> آره خب آره این دکتر اخیرا وقتی میگیم که وجود زید مناقضه عدم است ما سوال اینه آیا برای این مناقضه بین وجود زید و عدم نیاز به خصوصیت وجود زیدی داریم یا نداریم بله اگر دخیل است وجود زیدی با خصوصیت زیدی با خصوصیت زید اگر دخیل است دخلی. خب معلیش اینه چه پس منهای این خود طبیعت کافی نیست چی گفته برای طبی... اینکه... طبیعت مناقض داره خب اگر داره. خود طبیعت کاف یه در مناقضه نه هر چیزی خب, در... خب همون دیگه اگر کافی پس انتقالات نداره آقا وجود با تمام شد پس اجازه اگر ببینی یه شی که دو تا الکتریمو خاط که دو الکتریته اگر خود طبیعت به نحوه کامل مناقضه یه عدم میکنه پس خصوصیت باشه که نباشه این چی؟ این هیچ دخالتی نداره. چون طبیعت کامل دخال... کافیه برای ترده عدم اما اگر که طبیعت کامل چی کافی نیست با این خصوصیت وجود زیدیه که اون مناقضه شکل میگیره پس لازمه پذیرشی این حرف نه که خود طبیعت پس پنامانی ابایی از اینکه با عدم همه خوش باشد نده و وقتی این طب شد این طبیعتی که خودش ابتذای مناقضی با عدم نداره میریم سراغ واجب بگم واجب مصداقی از همین طبیعت و شما به حسن اصل طبیعت وجود میتونی او را معدوم بدانی او اجازه میده که شما این مصداق این وجود را معدوم قرار بدهی و یعنی که این کار واجبه پس بنابراین یا دخالت دارد یا ندارد اگر دخالت دارد پس اگر اون دخالت را حذف کردیم خود نفس طبیعت که اون زمینه را نداره اون کافی نیست در مناقضه و اعوایی از معدوم شدن نداره اما اگر دخالت عرضی که ندارد و طبیعت که این مناقضه دارد خب طبیعت وقتی مناقظه داشت یعنی عدم را ترد میکنه بدون که این خصوصیت در چنارش باشید و وقتی ترد کرد خود طبیعت پس موجود است چون اگه نمعدون باشه نموجود میشه ارتفاع نبیزن پس موجود است و موجودیتش هم در شرایطی بود که هیچ خصوصیتی و هیچ علتی و هیچ قیدی درش نفی ندروید. به قائله. علاوه که به تئوری اشتباه افتیده. و عدم زییت، هرگز یه دور خصوصیت. زییت خودش اساساً اساس که تو زید معدوم ما داریم. زید وجود. پس پشن... شما برای من مهم نیست که وجود باشه یا ماهیت باشه یا هرچی شی قرار شد وجود زید <تصفح> شی کلا وجود زید از آن جهت که وجود است مراقضه است نه از آن حد که وجود مقیده به خصوصیت زیدی شما که وجود قبول نکردید که شما گفتید من میگم واقعیت شی اون اصلا نه وجود ما همون آلاشو وجود شی شی از آن ده که شی است مناقض عدم است یا از اون که شی خاصی است که منطبق از هر دو همین و همین که نقیض بود مرد آ... انسان با نقیز مرد زید مختلفه مناعات عدم لا انسان برابر است با لازمی. برابر اگر... از فرمای شما این میشه که همی... لا انسان مصابیس با لازمی. زید نقیز طبیعت انسان لا انسان نقیز هر زید لازید لا فرمای فرمايش شما اون خصوصيات این مقاله نداره پس میشه پس لازید و واقع از با لا انسان لازید از اون جهت که لا واقعیت او باشر نغیزه نه. هستن خب همه شما نه با خصوصیت چی حاجا اگر میشه میشارم میگم شما میفرمایید تمام این مسادید لا مهمی نیست این اینا یه استاخ میشه مگر اینام خدا اینکه اینا تمامه نوا باشه درست آقا کثرات شسار... داره خدا استدار میکنه اثراتی که وجود نیستن که ما عذر ما هم قرار نیست متوجه شما که لو با همه اینا اینجوری میشن این همه دلو. بودنش فردا که بودن ما همه بودارو بپذیریم. نه فردا که همه اینا در کار نداره. نه همه داریم اگه یه مورد بنده مورد شما باشم که از اول هم یه مصوبه بس کنم. قرار برد مصادره نکنید. یعنی شما هم میگی آقا این هر آقایی که در اینجا به حساب وجود خصوصیت زید سرون با خصوصیت زید. آقا شما باید از اینو که شما وجود اینا به حسد یه رو فرض میکنید رد کنیم یا هستن پذیرفتید دارید برپذیرفتا دارید استدار میکنید شما باید بپذیرید هم فرض وجود لاب شرط رو هم فرض وجودهای متعدد رو برد. نه آجا بایدایی متعدل رو نمیپذیرند نه نمیپذیرند استدار کنند نفسیم استدار کنند استدار کنند مگوه آقا شما اگر خصوصیت آه. خصوصیت آه. وجود زید بودن را یک نقشی براش تو مناقض قایلی پس معنیش این میشه که خود وجود به تنهایی علت تام نیست برای اون نقش داره اون اگر نقش داره پس این یکی به تنهایی کافی نیست شما که كه... شما فهموند باید نیست که وجود در آقا شما... اگر این نقش دارد معنیش نیست که اون زمیمه است اصل طبیعت خودش به تنهای کار آقا آره آره لا انسان اگر... با لازه فرم میکنی ما اولیش میتونی منو بده. لازه شما... با لا میکنه این روشن میشه لازه, لازه با لا انسان میکنه. آ... ولی شما بیاری سواغه مثلا نقیز انسان لا انسان نقیز زید لازه یعنی خصوصیت زید در مناقضت خلافت به معنای این نمی‌کنه که این با خصوصیت نقد بشه اگه،, اگه این اگه، اگه نباشه باید سوال ولی دقت فلسفی به شما میده آقا. آقا. آقا. که این نقیز است از اون ذم به که شی است اگر از اون ذم به که با خصوصیت زیدی هم می‌فرمایید چرا این است که لا وجود با لا انسان با لازید لا بک لا اینا همه یکی باشه یکی دیگه با اصل منطق مغالطه اگه بخواین شما مثلا بزنید معناات ببرید دی معناات حکمت ما باید بفهمید آقا مناقضه کامل در نقض خصوصیت وجودی زید نیست چرا نیست اگه نظر ما مختلف برات میگم اگه نباشه برای انسان برابر باشه برای اینکه اینا دارم توضیح میدم خصوصیت زید اگر داخل باشه در مناقضه معنیش اینه که خود طبیعت که این خصوصیت توش ملاحظه نشده او علت تام برای مناقشه. نه خیر، چی گفته طبیعت اخیل میدونه. آقا عزیز من طبیعت هینی که در حالت طبیعت است. مناقضه خیلی خوب لا طبيعت اگر طبيعت اگر طبيعت بدون این خصوصیت هم این کارا میکنه او. پس دخالتی برای اون واقع نیست آقا در مناقضه خودت شما بگو کامل نویز. اون دخالت رو. آقا مناقضه نقيز و كل شيء رفع او بگو كل شيء خود. ما براش یک مستاق بیشتر نیست اگه ما هستیم خب شما نباید بهش شبا... استناد کنید ما که استناد نچارجید ما در که من کل شئی هست شما داری میگید مثلا گفتم شما فرضش رو باید. باید بگید این کل شئی را تو من نمیگم که من استدلال بر نفکش بیارم اگه من میگفتم کل شئی میگفت تو خواغا ده کل شئی باید بگید نفیش کنید و اینا تثبیت نمیشه اما کل شئی را شما داری ادامه میکنی که این مصادره ما میگه حالا فرض میکنیم که کلا ای شیعی باشه به نام علف این شیعی علف. آیا علفیتش خصوصیت علفیتش دخالت داره؟ دخولت یا دخالت نداره؟ دخولت اگر دخالت داره یعنی پس،, پس اصل طبیعت شیی چون برای یک به صلاح جز ای که این وقالی اونا نبات کامل بدوین کامل معیار نبات چون ذاتش هم در مقام ذاتش او خب اگه کامل او خودش. خب پس این ای دوران ای ای این اگر... کجا اگر ت... اگر مراقذه به اصطلاح وجود شی از اون جهته است که شیعه است و شییتش کافیه بدون این که خصوصیت داشته باشیم اینی که ما به نظر میکنیم به شی به حقیقت شیعیه نقیزش لا شی به حقیقت شیعیه است وقتی من شیر رو دارم ملاحظه میکنم با قیودش محیزش رفتی منات حکم رو باید بفهمیم و حکم خود کاریت منعات... شیعیت نه منات حکم باقییت خصوصیت اگر شیعیت, پس, شیعیت پس, پس فقط شما نه. کافیه که نفع شیعیت کنیم منات حکم باقییت شما پذیرفتید گفتید در خارج یه واقعیت داریم کاریه نداریم به این که وجود راوییت مت... هر چه باشد اگر, اگر متابق لاب شرط بودنش از کجا دارو لاب شرط بودنش از این اگر اون مطابق اون خود به صلاح شی به صورت لاب شرطی او کافیه در مناغذه پس این بود و نبوده ایست در مناغذه دفیل نیست کافیه دیگه اگر کافی نیست پس لوازمشو بپذیری یعنی چه کافی نیه؟ یعنی خود طبیعت الوجود ای با عدم نمیکنه. اگر مناقضه‌ای عدم نشود ببینم سراغ واجد بگو من آقای واجد تو هر ذوری بزنی فقط بگو من وجود برام ضروریه اما این چیزی که بر تو ضروریه با تو نفس طبیعتش عدم پذیره و این نیم یعنی سنت واجب ماجوم باشید خب بازم خداحافظ خداحافظ خوب بازم خد خداحافظ خداحافظ خداحافظ خداحافظ خداحافظ خداحافظ خداحافظ خداحافظ خداحافظ خداحافظ خداحافظ خداحافظ خداحافظ از خداحافظ خداحافظ از خداحافظ خداحافظ خداحافظ خداحافظ خداحافظ خداحافظ خداحافظ خداحافظ خداحافظ خداحافظ تو این حال هوای در نبودم و دستبوس هر دوستاد بزرگوار هستم و بخشید خلاصه. از اینکه یه وقت یادت شد, شد به حسن مدیدت این کاغذی بود که برمن میرسید. و صلی اللہ علیه محمد و عالم محمد.